که مثلا بنده یه دفعه شگفت زده باشم سر از کار کامپیوتر و ماشین و موتور و این چیزا در میارم تو بحث فنی متوجه غیر از بحث فنی تو دانش که تو به هم یاد بده حتی تو مباحث فنی ها من خواستم بگم اون قسمت که تو داری میگی یه دفعه رفتم رو این کتابی ای که گفتی من خریده بودم حتماً مرسی یه کتاب دیگه ای هم هست حالا من اینم نگاه می کنم اینم حتماً عالیه اینم اون کتاب دیگه ایام هستش گرفتم که در مورد یونگ هست. به چرا عوض مردی گرفتی؟ عوض زن ها باید بود. خود مرد فرد با برداشت بیشتر. چون آره خصوصا وقتی اون یکی بیزینسش بیشتر حتما با زناس حتما بعد در مورد خانم بیشتره. عوض مردان. عوض مردان؟ بله. بله. <تصحب> بله یونگ هست. چیزی نیستش که شما بخوای مرد این وقت باقش باید حالی واسه زبان بده مرد بخونم خیلی کار فکر فکار ماله خانون ها شده و میکروفتر باشه بله این این بیش از این که در مورد خودتون ببین بیش از این که در مورد دیگر ها باشه در مورد خودتون من همیشه تو کلیس ها میگفت که گفتم چند تاشو بهتون بخصوصا برای این فرش بودرگتون به تون یاد دادم، صاف بشینید، صاف بیستید، تکیه بدید، کمر ستونه، این پشت گو تو صاف باشه، گل تو گلی کمر تو بره به خاطر که همه اینا به شما کمک میکنه که همسالم میمونه، همه من روی رفتاری شاید. و شخصیتی بله حتما بسید، این انواع مردانم من یه نگاهی میخورم این خیلی کوچیکه بخصه. من زبان وسط باشه. من میشم کتابای یونانیون اون علایم عید و. زبان بدن تو کتابای مختلفی مختلف مختلف و زیاده. مال آقای چیز زبان بدن کتابای چیز مشکله. کتابای مختلفی داره. ولی بهترین چیزش که اول برای خودتون یاد بگیرید. چون یک کسی که با شما مذاکره میکنه از شما عالم تر باشه از حالت های بدن شما فیزیکال تاثیر میزنه ها اون به به ولی دیگه اصلا نشین نمیخوادش برای شبیه نشه اینا ما ببینید ببینن اینا بعدش من اینو دیدم اینا که یه کافی شاپه ابن توی بوتیک توی آیسبه اونجا زیاد میرم واسه خودم حال میکردم کافی شاپ صدا خیلی خوبه. لانگ خوبه. همش خوبه. همه را نفس. همون که اونجا خیلی سال میرم بعد اتفاقا اونم چون اینا دیگه بیزینس خب بیزینس‌ها رش پیدا کردن‌ها اکثرشون کتاب دارن تو هاشون شما میرین اونجا با لپتاپت داری کار می‌کنی یه چیزی می‌خوری متالنجی می‌کنی وقتت تو می‌تونی بگذرونی اینو من اونجا کاملش خود دارم کتاب‌هاش همه چیز ای داشت از این جنبه بیشتر چیز داره دیگه خب کاوشگوش کجا صدایی چیزی گفتی ببین تو خ... تو خروجی تو کوردسا خروجی که میان به سمت آیسپ چه قدیمی فامسلی ساختن دیگه یا پایینش پر رستوران و کافی شاپه الان از قیلیون و فقط میوجات و اینا داره تا اینکه که اونایی که سالات دارن، غذا دارن یا صرف مثلا کافی شاپی داره که فقط مثلا کیک و قهوه و سالاد و دست خیلی خوب، تا تایی آره، گربه زیاد داره حالا اقل گربه چرا اصلا گربه که خوبه رو؟ اصلا میریم، نمیدونم دمه کندوقشونه از این کافی شاپ اسما رو من بخشی اونی که در واقع بچه ها وساید تخت و ورزشون دارن دقیقا کنار لباس فرشی بزرگ نفر. دو تا گربه اونقدر همچی درمه اونجا خوابیدن <تصفح> اصلا شما هم که هر میرید تو خورزه رو منم بازی یارم خب نگه باند کن شما را به شما میگفتم ببخشید اصلا من, من یه سآل بپرسم شما همهش به بریه توجیم کنید نه من به شما توجیم چام پس با شما تمام کردم نماستونده بود. ممکنه چی داشتیم میگفتیم؟ آخر حرفم چی بود؟ آها، می‌خواستم اینو بگم. ببخشید، باز بذار قطع شد. آها، تو دانشگاه مهمترین هنری که باید به بچه آموزش بده بشه اینه که چجوری فکر کنیم و مطالعه کنیم. چجوری تفکر کنیم. به فکر فکرمو بس ساختار بدن. این بعد تو مدرسه اتفاق می‌افتاد. بعد تو مدرسه اینو نمی‌افتاد. تو دانشگاه شانس بیارید یکی از استادا بتونین تمر فکر رو به شما بده و این چیچوری پجروهش کنید و تحلیل کنید ببیند از دانشگاه شما مطالبی که میخونه همش بحثای تاریخه خیلی هاش یادتون خیلی هاش که فقط لازمن یادتون مثل من بحثایی رو که من علاقه من بهش هستم بحث تاریخ رو وگرم بحثای مدیریتی تو رو میخواد کتاب کندم، درس کندم کل کلاس رو واحد پاس کردم حسابداری تا دلتون بخواد یک دونه چیزی یادم چون محوضه مورد علاقه نبوده در رابطه با اون مدیریتم بحثای بیشتر رهبری و بحثای مشارکتیش خاطرم هسته و برام جذابه چون بقیه لازمیست شما ذهن ذهنتون ولی این تم فکری رو من دارم تو دانشگاه یاد نگرفتم حاجو هشتر تو کار میشت. یعنی فهمیدم ساختارشو تو دانشگاه بهم داده. دا. خانم استاد مومیخ خیلی امس. فوق العاده زیبا و خوشکی ببوت تو دوره بیسانس تا فوق بیسانس هم, هم استاد خیلی خوبی داشتم. بحث تحلیلی بیشتر سن، تجربه و اساتیدی که دوستانم بودن. اینا آدمای خیلی در جامعه علمی مطرحن. اینا واقعا دانشگاه منو تونست نرم من فکر کن که من دانشگاه نمی هر ستا اینا رو تو کار به دست می بردم. چون جایی که کار می محیط دانشگره اگر هم حتی ده سطح دیپلوم می موندم این ستا رو به من میداد. اون آدم رو شما رو این نورد قضاوت کنید که تحصیلات داره اصولاً دستورش الان خیلی هستن بیزینسمنه دیپلم من من انو باشو سرکارم کار اون کارفرماه که دیپلم من خیلی از من هیچ کدوم از چیزایی که منده بلدم حتی در مورد سرمایه گذاری و مدیریت مالی میدونم، اونا علمیشو نمیدونن من خیلیام بهتر از من در چی ذره‌ای راحتی نداره جانم بفرمایید من چرا به شما توجهم خیلی هم به شما توجه دارم بفرمایید آقا به من توجه نمی‌کنید جانم سوالتون بپرسید سر می‌خواستم ازادتو بپرسید چون نوشته که کلمات معانی متعددی دارن یعنی چی کلمات معانی متعددی دارن بشین و بفرما با تمرکز نه منظورش یه کلمه بوده یا چند تا کلمه نه دیگه نه دیگه که مثلاً یک کلمات میتونن مفهوم و معانی مختلفی داشته باشن درسته. سوالش رو بخون. سوال میگه که میگه که من تمایل دارم به این نکته اهمیتی ندم، وقعی نه نهم. که بعضی کلمات معانی متعدد دارم. اینو چرا میگه؟ شما توی محارتهای کلامیتون گفتم به شما. همون که استاد آقای کاشنی هم گفت کلماتی که به کار میبری تأثیر گذاره. نمیایی بریم خونه ما. با هم بریم همراه بشیم بریم خونه ما. مفهومش یکیه ولی م... نوع واجهی که به کار میبری اهمیت داره یه موقع اصلا هست... طرف رو با یک کلمه میتونه هدایت کنی به اون سمتی با میخواهی تا خیابون بخواهی. که آقای شیزگو کادمه فرض بگیریم <تصفيق> که با یک کسی آشنا شدیم که هنوی خیلی شناختی نداریم نه من ما و اصد اون قضیه همون نه شما دارش کار آشنا شدیم. یک همین که جلو رفتم میدونیم آدم محترمه. هرگز بهشی نمیگم که من شماها رو دوست دارم. ببینید تو کلاس هم بیتونم به شما شماها رو دوست دارم. به اون چی میگم؟ یه یعنی من برای شما خیلی احترام قادم. من خیلی ارادت دارم به شما. ببینید همونه ها، همون مفهوم دوست داشتنی که من برای شما هم به کار میبرم واقعا شماها رو دوست دارم یعنی بهتون احترام ارادت دارم. عاشقتون که نیستم به مفهوم عشق، به مفهوم احساساتی که درسته بحث عاطفی نیست، بحث انسان با یک انسانه درست ولی برای اونادر چی کلمه رو به کار می‌برن که معنی تأثیرگذار. چرا یه روز بهم بگی دوستان توی تو تفاهم چی نباشه؟ درسته؟ پس برای شما در جایی که هستید می‌تونه از کلمات مختلف که معانی مختلفی می‌تونه بده، تعبیرهای مختلفی بتونه استفاده بکنه. اینو برای این سوال کرده. خب آقای سلطانیم دوستان. دوستان ما یک کیس داریم که میخواییم انجام بدیم من میخوام بحث مدیریت مرابه ارسانی رو برم با همدیگه این رو دنبال بکنیم بحثش رو تموم کنیم و یک کیس در رابطه با رفتار سازمانی انجام بدیم که بحثاش رو امروز یه بارم با هم برون کردیم خب در رابطه بار رو خدا چرا حرکت نمی کند؟ خودش خوادش کلی کردی؟ با ما رو رو خود چه خیلی هم از سربانی می رو سا, سا. نه بابا برد خدا با شیلیش پا دارم خب ببینید دوستان ما این جلسه یک ای کلیاتی از بنابرای انسانی می باهاش باشیم باش کلیات بحث قضیه، بیس قضیه رو و اگه وقت بکنیم تو بحث استراتژی هایی که اولین در دواقه منابع انسانی هم هست با هم صحبت میکنیم. توی واقع از زمانی که تو این دهه در واقع سال، شهست سالی که بحث های خیلی بعد تو زمین مدیریمت مطرح شده، در رابطه با دواقع اداره کردن نیروخ های انسانی، عنوان های مختلفی رو بردن تو سازمان ها. گفتم کارگزینی دروسته اداره مالی اداری یا در رابطه با مثلا گفتم اداره امور کارکنان مدیریت منابع انسانی مدیریت در منابع انسانی و اداره امور کارکنان بحثی که امروز خیلی مطرحه میگن مدیریت استراتژیک منابع انسانی یا عنوانی که من خیلی دوستش دارم امروزه از دو به بعد مدیریت سرمایه های رسن انسان این انسانه ندید خان خانم فراختزوجه هستم این انسان سرمایه سازمان هستش برای همین مثل دستگاه بهش نگاه نکن مثل ابزاری که داری نیست این تمام وجه تمایزه سازمان ها میتونه مدیرش باشه میتونه نیروهای شایسته و کارکنانش باشه. پس برابر این امروز بحث مدیریت سرمایه انسانی آن شکل به صورت اورس تو تمام در واقع شرکت های بین و, و حتی ایران امروز بیشتر مطرحه مدیریت منابع انسانی اچ آر ام درسته مدیریت منابع انسانی پس ما هم از همین الفاظ در واقع استفاده میکنیم آن خطا چطور تکرار کرده ای خدای بزرگ خب ببخشید دوستان، که همان چیز داره؟ پیدیف فریدر بریزمان پیدیف این؟ پیدیف ولی ما فایرفاکس باز کرده میشه شما بازش کنی باید چیز محبت میفهمید دوستان، تعریف منابع انسانی چیه؟ تعریف منابع انسانی میگه آقا جان ما اول بدانیم مدیریت یعنی چی؟ سمیرا، مدیریت یعنی چی؟ مدیریت یعنی سازماندهی، تصمیم گیری بعد اون uh, وظایف مدیره یه مدیر باید بتونه سازمانش but, uh, رو بتونه به موقع تصمیم بگیره خلانیت راور یاد داشته but, باشه سازماندهی داره خود مدیریت یعنی چی؟ میخواید من را مدیر، مدیریت کنی؟ یه چی کار کنی؟ یعنی بتونی در جهت اهداف خودت و شرکت بتونی یه عده آدم و تیم و گروه را مدیریت کنی یعنی بتونی کنترل کنی یعنی, در در در درست می یعنی من بتونم افراد رو به کار بگیرم برای یه هدفی هدف به کار گرفتن آدم ها شما چه زمانی میتونید مامانی تو شما, شما رو مدیریت میکنه درسته؟ شما اتاق اتاقاتو تمیز کن مهمونان این روز تو شما باید درست کن داره به شما یه کاراری می میکنه که این کارا رو شما باید انجام بدید شما رو در مدیریت میکنه یه اقداماتی انجام بدید به کار گرفتن آدم ها یعنی مدیریت حالا به کار گرفتن این آدم ها برای رسیدن به یه هدف خاص که میتونه هدف تو سازمان باشه توی خانواده کچیک ما باشه یا برای یه هدف کار گروهی ما باشه درسته؟ میتونه انجام بشه این بحث مدیر مثلا یه مدیرت منابع انسانی دقیقا یعنی که اداره کردن سرمایه های انسانی با توجه به اقداماتی که توی حوزه منابع انسانی مطرحه یعنی همه وظایفی رو که سمیرا گفت خیلی ممنونم که بهش اشاره کردی چون تمام مدیران منو به انسانی وظایف مدیریتی رو دارن یعنی چی بهو؟ یه بار دیگه برنامه ریزی برنامه رزی تصمیم. طراحی مدیریتی، سازماندهی، آه. هدایت و رهبری، نظارت و کنترل و در واقع تخصیص منابع است برای اینکه بتونیم که بیشترین استفاده رو از منابعی که در اختیارمون انجام بدیم. این وظایف مدیریتی که همتون آموختید. جان خراب، من نمیدونم چرا کو فلش هم دیروز نرفتم. ببینم شما همه با این دستگاه‌هاتون نمی‌تونید من تون ارسال مم. کردم چیزو. یعنی اصل الان به ما بدینم همینطوری نشون میدین؟ نه نه نه نه. اگه برنامه چندش کنه. نه من میفرستم چون سریا قبله که مشکلی نبوده دیدی؟ سری. نه, نه این سریا مشکل نداره. اون چیزی که باهاش باز شده د مشکله نه. ببینیم. بعدی فاده بله بعدیه درست. خب الان اشکال نداره. اون یه صفحه مهم نیست. من براتون میفرستم دیگه. تعریفی که براتون کردم همین بود که مدیریت یعنی به کارگیری افراد برای رسیدن به هدف خاص، برای رسیدن به یه هدف مشخص. توی منابع انسانی در واقع اداره سرمایه های انسانی برای رسیدن به مقاصد مدیریتی و مقاصدی یکی هدفایی که ما توی مدیریت منابع انسانی دنبال می‌کنیم. یعنی چی بود؟ یعنی برنامزی رو انسانی یعنی چی؟ یعنی جذب و استخدام و بعد از اون میخواییم چیکارشون بکنیم؟ آموزششون بدیم، توسعهشون بدیم دیگه بعد اونش میخواییم چیکار بکنیم؟ نفررا رو که درواقع گرفتیم بتونیم مدیریت استعداد که کردیم ببینیم چه ارزیابی داریم ازشون چه ارذابی اولیی بود براش شرط اروز ها داره برش حقوق در نظر میگیریم جبران خدمت می و اگر ارزیابی عملکردش کردیم مدیریت عمل از سیستمش رو داشتیم شایستگی هاش رو میبییم رششته شد سازمان می بینیم براش چه کار جبران خدمت های دیگری میذارییم ترفی میذایم مبث معنوی و مادی براش در نظر می گیم. بعد از اون کار تویسی سیستم ما قرار بگیره و بتونه با دیگران کار کنه یه محیطی باید داشته باشه که محیطی چی باشه سالمی باشه ببینم من وقتی که استخدام شدم بعد یه ارزیابی درستی از من صورت بگیره، وارد سیستم شم، با فضای سازمان آشنا بشم، های پیش از در وقت استخدام ببینم، فرهنگ سازمانی رو بشناسم، چشم انداز، مأموریت، اهداف سازمان، تو قسمتی که میخوام برم چه فرهنگی داره، چه شرح وظایفی دارم، با اون‌ها آشنا شم، پس یه آموزش توسعه‌ای به من داده میشه. در چه سال‌ها این اتفاق باید بیفته؟ بعد از اون باید بتوانم تو سیستم که قرار گرفتم جبران خدمت بشه. یه حقوق دست به من تعلق میگیره. و بحث ارزیابی که میشم شاهستگیر معلوم میشه این میتونه در حد پاداش، بهروری و چیزهای دیگری چه معنوی چه مادی باشه. بعد از اون میگم نگاه که من باید تو یه موقع باشم که احساس امنیت بکنم. درسته؟ احساس آرامش کنه. پس یه محیط سالمی میخوایم که بتونیم رابطه با همکاران و مدیران رو برقرار کنیم و بعد من آدمی که استخدام شدم دوستم اگر فرد شایسته بیمه، می‌خواد که در سازمان چیکار کنیم؟ اون فرد رو بمونه، سالینار سال صد بر مکار بکنه و اگر هم آدم ناخرمدی از سیستم چی بشه؟ جدا بشه. ولی اگرمون بیمه‌شو بدیم بازنشسته کنیم، می‌شه بیمه رفاهش رفاهیش رو در نظر بگیریم. این در واقع وظایف اصلیه و نکات و فعالیت‌های کلیدی که حوزه مدیریت منابع انسانی بر تعریف کرده. این حوزه ها رو تو شرکت هاتون دارین؟ مدیر عمل هم دارید؟ بودی یا تا سیستم هم مدیر مدیر عامل شرکت ما انجامش بده نه دیگه دارد. یه سیستم فرآیند تو حوزه منابع انسانی دارد. یعنی شما هر 3 ماه یا هر 6 ماه ارزیابی میشید یه فرمه پخش میشه خودتون خودتون ارزیابی میکنید مدیر مستقمتون تو بستگی داره 180 درجه باشه یا 360 درجه بعد یه عملکردی شاخصهایی داره آیتمهایی داره یه سرش عمومی تخصصیه تخصصی مثلا چقدر شما علاوه دانشی تغییر کردی رشد داشتید یا نداشتید آموزش رفتی یا نرفتی چقدر حضور قیابت تو سازمان رفت آمد بوده؟ چقدر پایبند قوانین سازمان بودی؟ چقدر تعهد سازمانی ای آیا رشوه گرفتی یا نگرفتی؟ آیا برند سازمان رو بهش لطمه زنی اجازه مسئولیت ها و اخلاق حرفه اینا یه شاخصایی که حالا بر حسب نیاز اون سازمان تعیین میشه به تو سیستم تو عمل کرد که اومد می می آقا ارزیابی شده این وزناس امتیازش انقده ام حالا سر این این آدم رو باید بهش افسایش بدیم تو حقوقش افسایشی دیده بشه، جذبش افسایش پیدا کنه، پاداشش بهش تعلق بگیره. حالا این پادش هم خاننده بره اخر سال، دو تا 6 ماه بررسی هستی چون هر 6 ماه بررسی بشه. میخوان که در واقع مطالعات در واقع کار مطالعاتی به ما بدن توی کشور سوئد. میان تو ارزیابی عرضیابی نگاه میکنن بر حسب موردی که اون حرفه که حالا افراد دارن و اون کار مطالعاتی میان نگاه میکنم پنج تا دا آدم داریم عملکرد اینا رو تبقیه اون سیستم که خروجیاش وجود داره برسته میان میگن بالاترین امتیاز آقای نوید خانم برده آقای شیدان میتونه بره چون این عملکردش تو سیستم جاز بالاترین عمل کرده این سیستمه یعنی نه تنها شما، من مدیر، من کارمن من کارشناس، همه تو این سیستم قرار میگیریم. و بعد چون شاخص داره، ادالت هم توش چی میشه؟ برقرار شد. و بالاترین خود که دوستان، تو وقتی مدیریت عمل کرد داریم، وقتی من عمل کردم پایینه، دلیل داره. دانشم. رفتارمه بعد اونجا برنامه تحصیلی برنامه ما تعریف شه ولی وقتی که شما اصلا مدیریت عمل کرده باشید ارزیابیتون عمل کردتون ارزیابی نشه از کجا بفهمی ضعف دارید م? توی سازمانه کوچی که ده نفریم پنج نفریم 20 نفریم شاید سیستمش برنامه گیرون باشه که انجام بدیم ولی حداقلش این که ارزیابی عمل کرده انجام می‌میره این فرم‌های ارزیابی داشته باشیم حداقل بعد این باعث میشه که اینجا هم نوشته بدم. اگه این سیستم رو داشته باشید، به سمت شایسته سالاری میتونید برید چرا چون آدما اولا بر به شایستگی که دانش، رفتار، تجربه است عمل کرده یعنی عملکردشون من خروجی که تو کارشون دارن چیکار میشن امتیاز میگیرن ارزیابی میشن این باعث میشه که این افراد مدام بهبود مستمر اتفاق بیفته در موردشون یعنی هر جا که نقاط ضعف دارن چیکار کنم؟ در او زمینه برن خودشون رو تحصیل کنن و در واقع دانششون رو افزایش بدم، هاشون افزایش بدم. بابا که شما این سیستما رو ندارید، اصلاً نمی‌دونید. مگه خودت کشف کنی که اینجا ضعف دارم، برام مطالعه کنم، برم یه کلاسی برم. ساد مدیرم میتونه بگه به اون دیگه. اگه بگه. آره شما ولی یه نکته‌ای داره. اگه مدیر من آدم آلمه باشه، آقای کاشانی و من را درسته بکنه اگر مدیرم خیلی آدم توامدی در خوزه منابع انسانی نباشه بر چی شاخصی؟ همونی که بهت گفتم نبید جا قضاوت قضاوتش هم شخصیه شخصی نه که با تو بده بر حسب تجربه و دانش خودش که اینم خوبه ولی جامعه نیست و شاخص داشته باشه بعد یه نکته بدتری هم که وجود داره شما را با که قیاس میکنه وقتی میخواد بین من و شما سمیرا تصمیم بگیره چه تصمیم میگیره ولی وقتی فرم داشته باشه یادش میره واقعا نمیدونه وقتی های ما گزارشاتش معلوم باشه میتونه تصمیم بگیری که من هم مطالعه در واقع کشور خارج بفرسته یا شما رو یه سمیرا رو درسته؟ توی سیستم ها هرچی بتونیم فراینده همون علمی تر بکنیم بهتر میتونیم سازماندهی کنیم و نیروهامون رو حتی بهتر میتونیم نگهداری بدیم. چون آدما خیلی وقتا به خاطر عدم رضایت شغلیشون که جابجا میشن که این میتونه پرداخت باشه، نوع قراردادشون باشه، همین الان آقای مهندس داشتن میگفتن، نوع رفتار باشه، ناعادلاتی هایی که وجود داره، ناعدالانه بودن خیلی از مباحث تو شرکت و این مسئله دیگه اصلا حالا الان من قبلا فکر می‌کردم که توی سازمان همیشه بودجه و حقوق و اینا حرف اولو میزنن ولی تحقیقی کردم گفتن که بودجه الان در رده هشتمه مثلا از یکی تا ده, ده برای رضایت, رضایت شغلی میفهمه بله رضایت شغلی ببینی چرا توی تئوری مازلو ببینی چند تا سطح داره دیگه ولیش اون سطح مباحث پرداختیه یعنی بتونیم من و شما پول داشته باشیم غذا بخریم بتونیم زندگی کنیم نیازهای اولیه‌مون مسکن غذا ها پوشاک این نیازها حقوق تا اینجا بله. برای برامون مهمه درسته برای از اینجا به بعدش یعنی من یکمی یک که رشد کردم با اون حقوق تونستم این مباحثم رو در واقع به دست بیارم و مدیریت بکنم یه زن از اون بالاتر میام که نیاز به احترام دارن یک کلیم بالاتر میام که چه خواه کنم شکوفا بشم، استعداد هم بیتونم توامنتر بشم مدیرم مدیریت استعداد بکنه درسته تش... شایست سالاری بکنه و بعد به مرحله شکوفایی که اون سطح کماله دیگه برسم پس بنابرای تو هر کدوم از این تو هر کدوم از پس نبی جا سطح در واقع و از رضایت آدم ها چی میشم؟ متفاوت داره ولی حقوق اوله صد اوله همه ما مجانی برای کسی کار نکنیم نباید هم بود. چون منطقی نیست منطقی ماده اینکه تو این کار خیلی انجام میدیم مثلا رفتیم یه داریم مشاوره میدیم اصلا میخوایم که به اون انژو مشاوره چی بدیم رایگان بدیم اون یه بحث دیگه است ولی اگر که داریم برای هم دیگه کار میکنیم در واقع بیست چی داره حتما رایگان نیست خیلی وقتا توی رفاقت هم هم رایگانی نیست. اگه من از شما چیزی نیاموزم؟ شبلی دارم میگم در مورد شبلی حرف بزن. نیاموزم ادامه نمیدم. چون من تفننم، تفنن، که تفنن‌ها رو که تجربه بیاموزم، دانش بیاموزم. اینجوری نیستش که مثلا شما منو بخندون، من یه فیلم خنده‌دار بزنید. لازم چه شما دارم. چون یه آدمی دیگه با یه تهمه فکری دیگه با یه نگرشی که و یه عالمه تجربه متفاوت پس برنامه اونجا یه یه بستونی هست ولی جعبه چی داره؟ مالی نداره، معنویه پس دوستان، دونه اینجا میگه که مدیریت منابع انسانی یک نگاه چی داره؟ استان و, و جامعه در یک پارچه به سیستم داره. برای چی؟ برای اینکه هر آنچه که, که میخواد تو مدیریت منابع اون عملیاتی که برای تو گفتیم انجام بده در راستای رسیدن به اهداف سازمانیه. یادتون باشه تمام های سازمان، خب، و همچنین استراتژی منابع است در راستای های کلانه که کلیه کلان به تجاریه. سازمان اصلا بونگا بیف و جمیل تو دنبال سوده. قرزن؟ و یعنی که دلیه نداره سازمان ایجاد بشه که دنبال یه سودیه اون سوده همه استراتژی های ما بحث بازایی بفروشته و منابع انسانیمو و بازرگاهیم و در های کلان هستش همینطور که سمیرا جونم اشاره کرد میگه آقا یادتون نره البته به میگم، یه تهوری در سال 2005 مطرح شد که تو کتاب آقای دکتر صغرابی هم یک اشاره کوچولو البته، صراحة نبوده ولی که بهش اشاره شده که از 2005 بعد بودم آقا جان، این که آقای سلطنان شما میگه منابع انسانی باشی و بقیه یه مدیر دیگه، نه، همه مدیران میانی و مدیر ارشد سازمان باید منابع انسانی چی باشه؟ چرا استمرید چون هم همه همه همه ما هم همه با انسان تعامل دارن در ابسطباد هستن میگه بله ما مدیر منابع انسانی متخصص وقت داشته باشین ولی واقعیت امر اینه که آقای کاشانی شما به عنوان مدیر باید بعد منابع انسانی چی باشه حتی توی یادتون باشه توی تئوریات خوندید اگه خاطرتون باشه یادتون هست هست یه بوده فرمی داشتید بوده انسانی داشتید بوده انسانیه که از همه بیشتره تو مدیریت برای همین هم توی تئوری دو هزار میگن پنج تمام مدینا باید بازوی من به انسانی شو چی باشه قوی باشه پس برابر این از وظایف مدیریتی که یه مدیر منابع انسانی هم مثل مدیران دیگه بعد تو بر... توی کارهای خودش برنامه ریید تم گیری نوآوری سازماندهی هدایت و رهبری استفاده بهینه از منابع داشته باشه بعد بتونه کارهای وظایف عملیاتی رو هم چیکار بکنه به خوبی انجام بده همینایی که با هم صحبت کردید بتونه درست جذب کنه از چه راههایی از طریقای علمی بتونه آزمون برگزار کنه، آزمون‌های راه شناختی، آزمون‌ها رو عمومی، آزمون‌های تخصصی، مصاحبه‌های ساختاری داشته و بعد در واقع برنامه جامع پذیری داشته باشه برای اون فرد تا فرد بتونه وارد سیستم بشه و شروع به کار بکنه. و بعد از اون باید این آدم رو توسعش بدیم باید مراحل ارتقا و توسعش برای ما مشخص باشه برای ما آدمر مشخص باشه بدونی تو این سازمان چه جدایی پیش روش داره همینطور که ما همج تا اوبد کارشناس میمونه یا نهتون کارشناس از کارش سفر بعد ارتقا پیدا می اگر که خوب عملکرد که بازور مدیریتی داشت چ کار میکنه مدیر هم میشه امکانی دارد رو خیلی بیزینس من هر بود بیا یکی گوشه از دوواه یه شرکتی در درون خود مجموعه مادر در بیاریم زیر مجموعه شرکت مادر چکا کنیم مدیر آمه شرکت بشه پس یه مسیری رو براش متصور میشن و بعد این فرق باید بتونه جبران خدمتش بیمهش، بازنشستگیش، مسائل رفاهی خودش و خانوادهش رو در نظر بگیریم. و اینکه بتون با دیگران روابط داشته باشه، یعنی اینکه ساختار سازمانجوری باشه که من بدونم آقای کاشانی مدیر عامله، آقای شیربانی مدیر آیتیه، آقای سلطانم مدیر منابطه هم و من باید باید باید باید چه داشته باشم، تو حوزه بازاریابی و فروشک کارشناسم، با ایشون چی صحبت کنم، با مدیر تا چقدر حد،, حد زنجیر فرمادی در ارتباطم و با بودجه آی تی چه مباحثی رو دارم یا تیمم چه مباحثی رو داره این روابط کارخونان توی ساختار و فرآیندهای سازمانی و فرهنگ سازمان کاملا مشخص میشه و شما تو قسمت آموزش‌های پذیری اگه داشته باشید با این مباحث اونجا شما رو آشنا میکنند شما تو شرکت نفت بچه‌های ردپایی نم یه دفعه نمیپرن تو سیستم هم؟ همه‌شون چیکار با کل مباحث نفت، سازمان آشنا میشن، من برای شون فرهنگ سازمانی درس میدادم در واقع بچه های خیلی جوان توی رده کارکنان و کارشناسی چکار میکردن؟ قبل از اینکه برم، بپیوینم به اون مجموع جدول استخدام بودن حتما یه درس فرهنگ سازمانی برشوند، هم بیست علمیش رو میامخدن می و هم بحث چکار میکردن، فرهنگ خود درونه شرکت نفت رو و بعد اینکه چقدر سازما حاضر رو من گذاری کنه و نبیده عزیزم چقدر بتونه رضایت من رو تو شغلم چطور کنه جذب کنه که من تو سیستم بمونم خیلی وقتا امکان داره من یه جای دیگه خیلی میرم تو سطح بالا من که میگم اشتباه نکنید شیبانی ای عزیزم هر کدوم از ماها تو سازمانمون تا یه جای امکان داره بریم و اطلاقم دیگه اونجا جوابه نیاز من اون سازمان نیست چه مادی، چه معنوی روشتی ندارم حتی پاسخگوی نیاز مادی نیست معنا خودم خیلی آدم توامندم سازمان نیروی حقوق منو دروغ پداخودش وجودی حقوقیش نیست تو سیستمش نیست نمیخونم که مجبورم سازمانو ترک کنم و سازمان هم خوشحاله به خاطر که تونسته به هر حال فردی رو توی مجموعه خودش روش گذاری کنه چون نفعش به جامعه میگرده چه آقای سلطانیان یا ما بریم توی مجموعه دیگه کار کنیم چه بریم برای خودمون یه بیزینسی بزنیم و این داره نه من تو سازمان اینقدر جای رشد دارم اینقدر تنور کار وجود داره که من سی سال اونجا بمونم جا برمونم کار که برم یه بیزینس برای خودم بزنم آن گذاشتم برای بعد از بازنشستگی چیکار میکنم؟ توی سیستم میمونم تا بازنشستشم یا که به هیزار و یک دلیل از سیستم یا کار آمدم جدا میشم سازمان دیگه نمیتونه یا نکار آمدم و از سازمان منو یا خارج میکنن یا خودم خارج میکنم. درسته؟ این میشه های کلیدی و اصلی حوزه مدیرت ملابع انسانی. پچوا، گرونتره مدیران الان تو دنیا مدیران بازاری فروش و مدیران ملابع انسانی. هنوز این بس تو ایران جا افتاده. هنوز آقای مهندست همه میان مشاوره بگیرن مشاوره فروش میگیرن. اینکه بیاد ببینید اصلا این اصلا بیا قوربونید بریم تو قبل از اینکه بیایم فروش تو رفته مدیر فروشی رو استخدام کرده که, که این کار نیست دقیقه. باید قبل از اینکه می خوام با من از من مشورت می گرفتید واحد ساختار ساختار بازار به فروش نداره می‌خوای چه فروش پایینه؟ چه سهم بازن میخواد؟ اصلاً تو اصلا سیستم نداری. تو اومدی توسعه پیدا کرده تو بله تو اول سه نفر بودی. بعد شدین در نفر، حالا شدین 20 نفر، حالا ساختار میخوای. حالا با اون اطلاعاتی مشتریان میخوای؟ حالا فرآیندهای بازاریابی فروش، حالا یه فرد مسئوله که به عنوان مدیر فروش که تم فکری داشته باشه، بتونه هم این هم تجربه چیکار کنه، بیاد سیستم بده به کار. درست؟ برای همینم هست که اون برای آب الان مدتهاست به این نتیجه رسیده که آقا بحث مدیریت منابع اگر اگه من برای همین گفتم مدیر سرمایه و انسانی. اگر نیروی تواممر و شایسته داشته باشم یا نیرویی داشته باشم که استعدادهای بالقوه دارن یعنی اینا یه روز برای خودشون مدینان ارشد و بیزینس منهای مثل استیو جابز میشه مثلا آقای نادوت خانما یه دفعه گفته ها درسته استعداد داره فقط اینکه بسوکه داره هدفش تو زندگی چی باشه چقدر خودش بخواد تلاش کنه چقدر بخواد خودش رو توسعه بده و در چه مسیری هم توی ایران قرار بگیره خیلی وقتا تصادفی نمیخوام بگم هست ولی به هر حال اینکه ما کجا قرار میره توی شرکت نفت کار کنیم توی یه بنگاه خصوصی یا توی پتروشیمی یا توی مخابرات هر کدومش میتونه تحصیل گزار بشه به برناممار من من از قبل به خاطر نوع شخصیتم علا خودم برنامه‌ام <تصفيق> بود من با دیدی میرم تو بانک یه هدفم با یه دیدی میرم تو نفت بさて شما هدف چیه مش من نمیدونم هر چی که هست من میخوام یه کارمند بدم کارم خوب من به همه دانش پذیرانم میگم هر چی میخواید باشیم عالی باشیم سطح متوسط و بر خودتون خوب عالی باشین میخوام مدرس بشه مدرس عالی باشه میخوام مدیر بشه مدیر عالی باشه میخوام پدر خوبی بشه پدر عالی باشه میخوای همسر, همسر خوب بشه، همسر فوق‌العاده‌ای باشه. خواهش می‌کنم رضایت به سطح پایین یا متوسط یا حتی خوب یا خیلی خوب نمی برای عالی بودن تلاش بکنیم. امیدوارم من هم سطح خیلی خوب یا خوب قرار بگیرم، در سطح عالی تلاشم رو می‌کنم. خب. بحث بعدیمون اینی که آقا، این مدلان منابع انسانی تو دنیا امروز نقش نقش‌های مختلفی دارن. آقای سلطانیه نزدم توی این نقشه بگو کدوم نقش رو زمانی که مدیر من رو به انسانی دیگه ایفا میکردی؟ من اجازه دارم زرگ پفلی هم رو با شما برگذار کنم در چون که چونکه آنترنک ها با توست شماها بیشترم باشم سوال داری انجامیت رو برم بله؟ کدوم یک این نقشه ها داشتی؟ اینا قابل توضیح اگر توضیح خیلی مشخصه. خلاقیتم بگم چجوری خلاقیت می‌تونید میگه چه چجوری می‌تونیم اتاق فکر داشته باشیم آه. اتاق ایده داشته باشیم مثلا یکی از کارهای که مدیریت منابع انسانی می‌تونه بکنه کشف استداداست. بچه بچه‌هایی که ایده پردازن رو بیارن تو اتاق فکر در مورد مباحث مختلف سازمان ازشون ایده بگیره یک کارشه می‌تونه این نقش رو ایفا کنه دیگه چی بپرسید هرجاش سواله میانجی چی آها، یعنی اینکه من میانجیگری کنم خیلی وقتا دیدید من با کارمردم مشکل دارم تو بحث حقوقیش من میانجیگری میکنم چه کار میکنم؟ که شما رو رابطتون رو یکی از کارهای اصل مدیرت مرموسی ایجاد روابط بین کارکنانه اه. کارکنان بین کارکنان و مدیر یا خودشون یا, یا پای دستشون یا پایی دستشون یا همسندشون وقتی که اونجا یه میانجیگری میکنم. یه جوری نقشه حل کنم یه مسئله اله ببخشید من اینو رو خوچی بکنم کنم یه دونه دیگه هم بشه درست بله. ولی اون آخری رو ببینید بچه ها اون آخری جزه آخرین تماییه که توی مدیران من و به انسانی مطرح کردن میگن امروزه مدیران من و به انسانی باید استراتژی من یعنی خطه رو تعیین کنم ولی باید متخصص باشن نه کلی دار شما باید بازوی راست مدیر باشید شما خره اجرایی رو باید به کارشناسات با کنید خودت بعد استراتژی من بشی تو ذهن منابع انسانی برای اینکه استراتژی منابع انسانی رو بتونی پیاده کنید و خود آدم حرفه‌ای متخصصی باشی شما می بینید طرف مدیر مکانیک مدیر پالایشگاه نفت شو مدیر منابع انسانی بشه کنه خب اگه توانایی شما اصلا داشته باشه نمیشه بعد توانایی بعد باید باید, دانش. باید دانشش تا تجربه شو داشته باشه یه دفعه شما رو میان میکنم معاونت منو به انسانی از مدرسالش ها شما, شما بهتری شما بشی شما بشی یه مدیر میانی اول بشه مدیر آموزش بعد یه در بیه بالتر بشه مدیر منو بعد شما معاونت یه دفعه میکننه برای همین میشه که شما میرید مرد فوقلاده یه اسم میبرم ولی همجور که نشست همش موجی منفی به شما خودم بعد اخلو رو اخمو. خب اصلا چهجوری ارتباط برقرار؟ مرد فوق لاده خوبیه ها ولی ارتباطاتش، زبان بدنش خب اصلا من حاضر نیستم با این حال بزنم. نمی‌تونم برم باشه ارتباط برقرار با اون بانیه نیرو. من که حالا مشاورهشم که مشکل ندارم ولی اونی که در واقع داره میده نیرو منو به انسانش و بتونم تعامل کنه باهاش. و بعد دانشش حقیقتاً کسب بوده. اگر هم بلد یعنی خیلی حرفه هداقلش حداقلش میگه می کسب بشه. ما الان داریم. من مدیر منابع انسانی یه شرکتی دارم، دیپلمه. یه یعنی شصحت تولیدی بزرگم. خیلی هم توامنده. یعنی خیلی خانم خاصه. هیچ چیز فوق العاده واقعا یعنی هر زمان باز من اولین کسی هم که توصیه اش به شرکت خوب. بسیار قانعم. خوب ببین دانش علمی شو نداشت ولی فوق العاده ادمه اداره و قسمت خزانه هم باشه استاد حالا یه بار سی ام بی ای منو می توان توسعه بده که توسعی حالا من صرف اونا امکان داره خودش مطالعه کنه امکان داره مشاور بگیره امکان داره هزار تا کار دیگه هم بگره صرف فقط تحصیل دانشگاهی منظورمی و تجربه کنه و الان باور کنه از روزی که منو پیدا کرده حالا البته منو پیدا کرده منو از طریق محسسی که درس می‌دادم پیدا کرده باور کنه خیلی چیزها رو با من مشورت میکنه و منم خیلی وقت میزارم. میدونی چه چون میگم ببین این دوست داره که تصمیمات درست بگیره امکان نداره از زمانی که من دو سال با اون کار میکنم کسی استخدام شد و من نهی و این باور در مدیر عامل هست و مدیر عامل کانادا زندگی میکنه ولی واقعیتش ده. اونا اومدن منو یکی دو تا شجاله سیمپر منو هم منو یه تستی کردن و یه سری آموزش برامون چون دادن بعد خودشون از من خواست میشه میشم ما کمک بدم رو چشما و بعد من دیدم چون اونا دلشون می‌خواد یعنی مدیر مدرسه چون ببین طلب میکنه شما با عشق اون رو چرا چون که ببین داره یه بیزینس به اون گندگی رو اینا میچرخونن و تو خیلی وقت‌ها مثلا قراردادمو یه نیم روزه ولی باور نمیکنم چون من درس بر اون وقت می‌ذارم بولانم امروز هم میگیرم چون طالب هستن میخوام من اینو بگم خیلی وقتها شما طرفو میبینی مکانی خونده فارسی اصلا نه مارا. اصلا یه رشته غیر مرتبه تجربه اندقت ادعاش یعنی از مزیرابی بیشتر میفهمه از همه آدمایی که تو توی حوزه تخصصا من استاد بازاریا میشم که من خاطره رو قبول ندارم ان شاء الله <تصفيق> ببینید من کانا ببین من من میتونم من به شما بگم دکتر پیش سباسی رو قبول هم. من نمی توان به شما من, من لوین قبول ندارم من غلط زیادی بکنم اگر این حرف بردم می دونی چرا؟ چون توریسیانه بله من زمانی میگم گم قبول ندارم که برم لازا رو بکنم سرشنش توریه رو به سخت برسونم تحقیقات جامعه بکنم دانش هم که باشه که جامعه من رو بپذیر به من قبول کنه من هم اسم میره کنار رو باشه لوین و درسته؟ ولی در وقت خودم هنوز عددی نیستم، عدد منظورم از نظر بودی تورسیانی‌ها. ببینید شما مدرسید میتونی بگه بله بچه‌ها این افراد لازار حدون هست، مثلا من یه ارادت خاص به لوین دارم و به تیلور. درسته که خیلی با، ولی هنوزم تو جامعه ایرانی خیلی وقت شما می‌بینید که همون مدلیت تیلوری به ارتفاع به این دو یه ارادت خاصی در یه چیز شخصی می، تم فکریمون متوجه؟ نه رو ندارم به شما این ادعا رو نمیجا شما رو سوال کردیم این رو هم موضوعن. شما هم که, که هستی برو دنبالش یاد بگیری. نه، حالا میخواستم این رو توضعی میدام دست من پدرم دکتره دکتر مدیریت داره فکر می که یه سری از این رفتارهای مدیریتی رو به صورت ناخودآگاه انجام میدم خودم. اه. اه. تا وقتی که متوجه نشم باید برم مطالعه کنم بعد اونا رو دوره آنالیز کنم دیگه بله. که اون افتاداره چی بوده بله. که من ازم سر زده. بله. ولی اگه جایگاه مدیریتی داریم مثلا توی سیستمه خب زمان که این پست رو بهت میدن حتماً یه توامندی نه فرض می که یه توامندی در شما ولی من خودم میدونم چند مرده حلاجه میدونید چی میخوام بگم مم. من خیلی وقته شده پست بیمه دادن رو رد کردم اونها در واقع توامندی دیدن ولی من نگاهم میشد که من ضعیفم هنوز سوء حازه بهتر وارد تو خراب میشم میدونید خیلی وقتا من خراب میشم یا اینکه اصلا حوزه مورد علاقه نیست یا اصلا هدفم نیست خیلی وقتا هدف ها من خودم هدف خیلی در که بله مدیر هستم، هم هم دارم، تحسیلاتش کار ندارم. در یه جاهای میبینم که مثلا نمیتونم خوب ارتباط برقرار کنم. زیرمجموعه‌ام دوستم ندارم. کارشون با کیفیت و برام اول تو خودم بررسی کنم <متصفيق> تو تم فکریم تو فرهنگی که برای من چی تو شهر و که بهشون دادم. انتخابایی که کردم نشون میده که مثلاً من انتخابای مناسبی تو استخدام نکردم. تو این حوزه برایم قدم <متصفيق> یا تونستم جواب بدم ولی اگر که بگم که همین ها من مدیر آمهر میشتسم دکتاتوره خوبم هم پول هر میتونم قسم بخورم هر ما کل شرکتش تغییر میکنم من افتحجاب هم دیوونه نمیشه من من بودم دیوونه شده بودم خب چهجوریام که شما می پول در یعنی؟ خب پول در میاره دیگه برای. چلو اصلا. خاطر یه باره داره چه که از این بیزنس های ما زد و بندوی خاصش رو داره نوع محصولش هم مهمه دیگه. من به شما بودم کار من شما اگه شما استی تو بیزینسش ببینید شما به هر کاری عشق داشته باشی به پول میرسید. این اینو من به تمام شما میگم و پاشم هستم دفاع میکنم. ولی به شما اینو میگم دوست من اگه شما میخواین تیلیدرر بشی شغل بعدا شما رو به وجود شغل منده شما رو به یه زندگی خیلی خوب میرسونه فرض رو کنید اساس پدری و خانوادگی هم چیزی نداشته باشی خودت تو تلاش کن از صفر شروع کنی شما رو به یه زندگی نرمال و موقعیت اجتماعی یک استاد اینو خوب میرسونه ولی شما تیلیدرر نمیشی خدمات شما رو هیچ وقت اون دروغه پولداری نمیرسونه توی شغلای دیگه و دنبال اون پولdare بگردی ایران دل نشه من نمیخوام الگو بشم اما شما سرخ صحوخ نمیدم برای این, این تاریخچه است دیگه یه تاریخچه یه با داریم یه فرهنگ و یه سی و هفت سال داریم نگاه میکنیم اونا که پشت پرشه هر نگاه میکنیم اگر قیر از دختره رو در نظر نگاه که پرشه ندم به سوار هنو سوار. نگاه بکن؟ که خیلی پول داره و فرض بگیریم که مالک نمیدنا چون خیلی هستن که ملک داشتن، خان بودن ولی مثلا شما سرین رو نگاه کن تمام زمینا رو نمیدونه با چه رحم در معامله میشه. مهندس من داهاتی یه دفعه 300800 تریلیون در میشم مثلا. مثلا این نم نمعامله کردم. تلاش کردم من مذاکره خوبی کردم. برای همینم میگم خیلی وقت‌ها اثر حاله‌ای یه براتون توضیح دادم تو ادراکی که تهوری ها اثر حاله‌ایه شما یه قسمت نگیرید به همه چی تعمیمش بدید پس الان پول لوله بعد از اون هیپ به شیدین باید کنید تحلیل کنید برای همین گفتم گفتم تو دانشگاه به شما باید یاد بدن تحلیلگرای خوب باشیم اول اینام که از چه خانوادگیه از خانواده فاوادریس بوده، زمیندار بوده، سرمایدار بوده، چی بوده؟ و خودش اینو به دست بوده، خودش با چی به دست آورده؟ انقلاب شد، تقریباً به که خسرو ارغناس جان به اونجا رسید، سیگار بلستون احتکار کرد، معاملاتی که یه شبه راست دو تا معامله شکر انجام داد، زد و بند دولتی داشت و این چیزا این فرق میکنه. ما چون داریم دنبال راه‌های درست هستیم، می‌خوام بگم که از راه درست یک کاری که عشققیت حتما به پوری میرسید ولی یه نمارو میداره یه سطحی از رفاهو میرسید خیلی خواهی ببخشید شده بازار اینجوره ببخشید <تصح> اینو باید اصلا بگیم دست پانه روشمند و تصفانه ها نه اینو من من البته یه مشکلی که دارم خیلی من یه دفعه نگاه کنم من خودم آخوی اینجا چیزو بردم میرم توی این ویروس ها همچنان ادامه دارم آره اون را هم ادامه دارم بست هیدن بالا جا اینه؟ بله سرکاله تو مانه فلاش من رو بگید داب. تو مثلا آیتی منی چی کار کنم؟ یه فکری بکن ویروس هایی رو بکشی بشید یه دوری این آخر هیچی نداره بروسیستنش آنتی گروش این رو نداره ببینی این نمه تو این باشه چون نیستش فایدم اینجا اون فایل قبلیه است هفته دیگه من نبتا با میارم بزنید این روستش رو بکشیم آه دستیل برفت نکنید این کار همه چیزا من بگو بیارم روز من تو ماشین هم فلش چه همین فلشه رو کم سه چهار دارم همهش ماشین یه مشکلی داره دیگه هر جا میرم اینا رو میزنم با اون کامپیوتره مثلا از کامپیوتر خودم باشه که مشکلی نداره که وای چقدر بد خب اتفاق باید باید با داده. من آها ها، تحنی درمی ههههههه میرسی چون زنده کنید جا؟ کوده ای که درمه زنده کنید یه چیزی بهتون بگم یه بار یه روز خیلی صحب مادم بیدید اصلا هوا گرفته بود و هرکی ما رو میدید یک گفه های درم دوگون این هیچکلی کاره بد نمی به شما توصیه نمی این کارا رو کار نمیده اینجور اونو باید آره میشه نه نه این چیزی کچوی اینجا هست بعد وارد توی خیابانه جور داد تو اسپانیلی. علتش <تصفيق> شما این کارا نکردین آمین. حالی بودم میکنم کار, کار بعد میگن از ادبیت فامکتیمی از بعد یه ماشین شاسی برام من تو پلیس هیپ کپی آمینو باری نونا. بس توش از این خروجی میمانم بیام. بعد دلیل همه نگاه کرده تا آقا دوتا هم نسیش واجینگل شما با این جمله. نگاه کرد با چیز که اپنید دردن شیطران دردن یعنی کارو ناخدقا هم جان دادم تا دوستان داشتم گماشی هم ویراش می دادم منو گم کنن از این که در اون خیلی خوب نیست اینو گفتم که خیلی خوشان یه کاری که شده دیگه آس دادم چه کاریش ما از این تجربه داشتیم نه من کارو میکنم خیلی موازه برفت از چون میگم کار خوبی نیست ولی پای نه است رو شراکی چرا ندیدمش؟ شما بوشش کو. کو. بال... این ها همهش ویروس ها آشمی که فولدر بد باشه باستاد هم فولدری که هیدنه اونو بس کنید الان آه. از تو که نیست اونجاید من شما رو این ویروس ویروس زده به تیپوتار همه چیزای من روید اما فردره که میگه کجاست بالاست بالا باید بالا باشه قاعدتا ولی الان من میچه کردم نبود نانیستش امیر تطر برستش <تصفح> <تصفح> <تصفح> برای موزیکه این دوستان من بلکه من روحی هم عوض شه چه موزیک های هم به نیدن شبه من خدای روحی هم حالا <تصفح> <تصفح> بلش کنیم، بلش کنیم بگزایم این... آره حتما بعد برم به داد اینا برسم چون دیروز اینا رو گذاشتم متاسفم میبینم که چیز نشه استاد اگه عجله نداری بعد کلاس من درست کنم برات نه عجله ندارم فردا چند تا درس برم تکرم کنم خیلی آره بلی شما فرستادم هفت که شما رفتن لش تو نیومدی من مضمون شما کامل. من سیدی زدم ولی اون فکر کنم نه سیگومیار راستی نداده نه نه سیگومیار نه, سی نه, سی نه, نه شما ندادی شما ندادی حالا اشکال نداره. شما ندادم. من این دوست بعد از این حالا من توضیح میکنم برای تو توضیح میدم بعد من بریم بر تو میتونیم دوست دارم. من کامل کنم خدا یه نکته ای رو که دلم میخواست حتما در کنار این نقشه به شما بگم چون بحثای داغ امروزه بگه که آقا جان شما امروز به عنوانی مدیر فکر میکنی باید یه مدیر از سر بخشی باشی یا رهبر باشی؟ بگی رهبر دیگه؟ باید رهبر باشی؟ رحبر. چرا؟ مدیر از سر چرا؟ چون رهبر رنگش بالا اون دو دیدی که داره نسبت مدیر مدیر تره بله بله ما میتونیم ولی یادتون باشه یه مدیر میتونه رهبر نباشه ولی یه رهبر حتماً مدیر هست اینو یادتون باشه امروزه امروزه بحث برینه که رهبری یعنی چی رهبری یعنی چی یعنی مدیریت کردن با عواطف و احساسات و تمام اون شخص ولی مدیریت کردن یعنی فقط عمل شبش تو چیز کردن ببینید، بحث رهبری نفوذه، مدیریت به قرب ها تو ای که آقای مهندس امروی میگه دردم میگه رهبری کردن یعنی که یه سری افراد رو برای مقاصدی که کار مدیریته ما مدیریتشون کنیم، وادارشون کنیم، اونها رو تأثیر روشون بذاریم میگه تو رهبری، من شما رو وادار نمی‌کنم. شما رو به کار نمی‌گیرم. شما از جون من من کار می‌کنید. پیروه من. اگه می‌خوایید ببینی رهبری یا نه ببینید چند تا دارید. قبلا ماکسفل ماه خدا حفظش کنید. تا بحث روی رهبری خیلی هم الان پیشرفت هم کرده همین کتاب رهبری نوشتش بله چندی کتاب داره آخرین کتابش رهبری 360 درجه است ولی اولی بحثایی که توریای که تو رهبری بود میگه آقاجان شما شخصیت رهبر باشید امروز میگن نه خب، خاطر رهبری قابل چیه؟ اقتصادیه. اکتصاب. خود مارکس که به این اعتقاد داشته که رهبری تا حد زیادی ذاتیه، امروز میگه نه، نه. رهبری هم 360 درجه قابل کسبه. شما میتونی خودت تو بکنید دوستا توی توی ها بسته به سازمانی که شما درش هستید، رهبر میتونه نقش بگیره. رهبر میتونه نقش چون یه سازمانی مثل شما امکان داره که فقط یک مدیر کارآمد بخواد یه موقع هست تو سازمان من با رهبری که من به اون خروجی که میخوام میرسم من به شما توصیه میکنم اگر مدیران آینده هستید حتما مهارت های رهبری رو که توصیه حتما مهارت های رهبری رو در خودتون افزایش بدید تست های مختلفی هم وجود داره در مورد رهبری که آیا میتونید رهبر اثر بخشی بشید میتونید دووا ا کار رهبری انجام بدید داشتم توی های، تو تو بحث های رفتار سازمانی وقتی که توی دوره های رسمی درس میدم حتما بحث رهبری رو میگم. اونجا دیگه فرصتش نم. اونجا حتما یه انجام جاونیم که بریم ما اصلا میتونیم آدمی هستیم که بتونیم در واقع اون قابلیت ها یک رهبر در ما الان وجود داره یا نه و اگر نیست چهان میتونیم بکنیم که افزایشش بدیم. پس رهبری در واقع بحث در واقع امده تفاوتی که با مدیر داره اینکه شما خاطر اون قوانین و چارشوبه که تو سازمان داری چکار میکنی کار را انجام دید ولی اگر که ره داشته باشیم مثلا فیدل کاسرو هیچده صاحب پشت تیرون وانسه برای شما سخنانده و من هم نیستم هیچده صاحب این کارو که یعنی؟ معروف هست معروف فیدل ببینید این شما پیروی نادم هستید ببینید حسین فهمیده و آهن اینم رو قبول بشه یه جوان 15 ساله‌ای که میره مارجای یعنی ربات پرپورت شبور نشه مثلا فکر نه که من برای وطنم نجات وطنم به پاس حرف رهبرش این پیروه شما فکر نمی‌کنید کار درسته یا غلطه چون اون رهبرت گفته حالا هر کی هست چیکار کنی انجامش میدی پس این نفوذ و تاثیرگذاری در نیم. دوستان اگر میخوایم ارتباط موثر و مذاکره موفق داشته باشیم، یکیش مهارت های نفوذ. کسایی مهارت های نفوذن که آدم ها قدرتمنديان. عرفت قدرت, عرف قدرت انوا داره. یعنی آدم که شخصیت های محکم دارن و قوی هستن نفوذشون هم زیاده تو آدم ها. تاثیرگذاریشون زیاده. دیدین خیلی وقتا برای شما نمیدونم پیش اومده یا نه. حالا من آن بگم این شیوانی من چپ من برای خیلی دوستانه زیادی دارم که حال تو بیزینس های مختلف خیلی وقتا مثلا دیدم که اول اگه من بدونی که سوال کنم یه دفعه همه پنهانی های خودش رو میری زرون دایره یه اعتمادی داره اون بحث اعتماده و یه جو که میگه ببینیم من هر کاری که هم بزم. تو میتونی یه جلسه به تو کهت مابهم دیگه چی بگم چه غلطی بکنه اصلا بیزینس تو چه ربطی به کار من داره اصلا چه می‌فهمم بیزینس رو که نه تو یعنی درواره چون من دیدم تو که حرف می‌زنی تاثیرش بیشتره. من دیدم اون روز که با مدیرم صحبت کردی 10 دفعه تو جلسات حرفاتون تکرار شد بعد میرم میگم خیلی خب چون روش فکر با. یا دوستم دوستام میگه ببین این کامبیر که شوهر عمرهش ربطی به من نداره تو اگه بهش بگو بخدان ببخش شوهرت تو مسئله شخصی تو من بهش بگم اگه بگی حرف رو قبول می کنید حالا موضوع موضوعی که قابله نیشه که منم دخالت کنم ببنه. و نه هر موضوعی و من دیدم همینطوره این دلیلش این نیست که شما رحبه بودی فقط دلیلش اینه که این نفوذه رو دارم حتما چرا در خودمان پیدا کردم یه مقدار جنتیکی هستا سامیرا جان این خصوصا در مادر من بوده ولی مثلاش که من یه منطقی دارم برای هر حرفم چون منطقه رو استفاده می‌کنه و اصولا آدما مگر دیگه خیلی دیگه غیر منطقی باشه اون منطق است که به اون کمک می‌کنه و این تأثیر رو می‌ذاره و حتماً یه اعتماده شما از دور مغناطیسی و حاله انرژیتون به اون آدم میخواید که خیرخوا هستید خیرش رو می‌خواید دوستش دارید برای بودن شاد بودن موفق بودنش خوشحال میشید و تلاش می‌کنید اون می‌تونه تأثیر چیکار کنه این نفوذر و تأثير کلام رو بیشتر کنه ولی اگر بخوام بگم تو رهبری شاید من تو مدیریتم بیشتر از رهبری باز چیم قوی ترم هنوز خیلی راه دارم تا به اون رهبره یا اون محارتهای رهبری برسم می‌چون نزدیک شده باشه ولی هنوز به مرحله نرسیدم چون به فرض این صحبت شما رو من قبول دارم ولی چند میشه مجله می‌خونم مجله موفقیت بله بعد اه... مجله خوبیه بعضی مقالاتش بله بعضی بله بله. بعد در مان مان نارسیس بود یعنی خودشیفتگی آها بعد توی تأثیر گذاشته بود بود که من به دنبال تأثیر گذاشتن در آدم‌ها هستم من به دنبال گذاری در آدم نیستم اونی که هسته یعنی میخواد نفوذ بکنه در دل دیگران و خودش به عنوان یه خوشیفته یعنی اونی که تظاهر شد یا یعنی بهمان یه آدم نرم نه ببینید من یعنی نه اما تاره... اون تست رو من نمیدونم بله من نمیدونم اون تست چقدر اعتبار داره چون باید روایی بله. اعتبارش بله. رو ببینیم همه چیزایی هم که تو اینترنت و تو مجلات هم لزوما علمی نیست بله. لزوما این به بهتون بگم تا خود شیفته کلمه درستی نیست ولی اعتماد به نفسش رو رهبر اعتماد نشه های خودش رو در یه جایگاه والایی میتونه اسم خود شیفته بار منفی داره ولی من می که باور و ایمان به خودش چون اگه ندشته اصلا شما پیروش نمیشی حتما باید بهش تاثیر بذاری سمع دادگاه رو که لازمش هسته چه مدی چه رهبر هست اصلا کلا آدما ولی مدی رو میخو بالاخره خیلی از کارکنان چون به خاطر ترس به خاطر مسائل مادی به خاطر اون آب که. چه به خاطر اونه که امنیت شغلی قبول میکنه خیلی وقتا من دیدم که رئیس دفتر میدم مدیرش متنافع بوده اون که البته خیلی کار سخت میشه ها و حتما کیفیت کار رو اثر موذاره رو عمل کرده اون واحد یا مدیر اثر موذاره بهتر این کار نیگه مدیر با کسانی کار کنه که باولش داره قبولش داره، دوستش داره اون دوست داشته نه هم خب ایمان و باور است یه منطقی با پشتش رو همینجوری که همه از دیگران خوششون نمیاد اون شان انسانی اوکی همه انسان‌ها رو دوست داریم ولی یه منطقی پشتش بیشتر وجود داره که ما بعضی‌ها رو بیشتر باور داریم رو. رو بیشتر قبول داریم اون ایمان است ولی اون خودشیفتگی که میگه بله من باید الان باور ایمان به با خودم داشته باشم تا ببخشید بچه‌ها تاثیر رو زن به اون طرف الانم انتقاد دارم از همه شما که اینجوری مطالب رو به در نمی‌دونید جراتم که من یه بیستم که درسته اگه این باور و ایمان رو با خودم نداشته باشم که نمی‌میام اینجا بیستم اون اون پشت میست مهمترین مسئله دیگه ای که دلم خواست حتما به شما بگم و امیدوارم شماها این نقش رو تو سازماناتون ایجاد بکنید نقش مربیگری منتورینگ ببینید دوستان امروزه توسعه منابع انسانی خیلی مورد مطرح میشه مدیریت به انسانی فقط صرف مدیر به انسانی صحبت میکنم کنه برای همه مدیران صحبت میکنه مدیران هر احتمالا کمتر میتونن روی ولی برای مدیران میانشو میتونم اینکه شما بتونید مربی یعنی که بچه بتونه به شما کمک کنه مسئلتون رو خودتون کنید چرا سوال میکنم از شماها؟ موزرو رو می‌گرم، خیست هم امکان نده که دو تا قبل می‌گرم تو سازمانش تو چی شد؟ شما چی ها می‌کردی؟ برو بگو گروه‌های رسمی چه عوارزایی دارم خودتان این مسلمت حل کنی من میتونم ده تا راه کار دارم بیاریم دو تا شما عملتم هشتاشو خودت باید بدونیم این میشه منتورینگی یعنی آقای ابراهیمی من نقش حمایتی دارم ولی ناجی نیستا. نیستم جای شما فکر کنم، جای شما کار انجام میدم، جای شما دنبال چی باشم، حل مسئله باشم. قرار تو مسئله حل کنید. دیگه من روش نمی‌کنم. اگه بابای آقای شیبانی، پدر عزیز، دکترای مدیریت داره، بهش بگه تو این رفتار، این کارو کن. تو اون کار، این کارو کن. این میره مسئلهشون که عینم رو خاک پدر شده. روش نمی‌کنه، خوش فکر نکرده. درسته؟ با خودش فکر کنه. باید مسئله خودش خوبش تحلیل کنید قضاوت؟ نه تحلیله های منطقی تحلی... تحلیله هاتونم کمی کیفی کنید چون کمی خیلی وقتا تو کیفی به ما کمک میکنید پس نقش مربیگری هم یکی از مباحث مهمیه که امروزه به شما میگم دوستان حالا میگه شما میخواید که کار مربیگری کنید فراخت عزیزم باید امو بر اینکه میخواید برماموها اجرایی بشن. سازمان یا حوزه منابع انسانی اون در واقع اهداف خودش برنامههای خودش برسه دوستان باید چیکار بکنه؟ باید بتونه مدیریت استعداد رو انجام بده کشف استعدادها دنبال بهترین ها باشه، دنبال هرففهی ها باشه اگر نیروی های کارآمد داره اثر بخش داره و نیروهای رو بیرون کرده، باید دنبال این باشه که این کارآمدا رو فکر نکنه چه اینا کارآمادن دیگه ول معطلا ولشون کن. دیدین؟ بیکارترین آدم کارمند و تنبلترین میشه وسن دور چرا چون اون یکی که خیلی تابامنده سر کاره. درختو پروژه تو دستشه. نمی‌دونه چجوری بزن تو سر خوش سرشو چجوری اینا سر, سر بخوام اینه. این خاصیتی هم داره. چیا؟ که اون کارنامه بیکارتر می‌فسم به لحاظ آموزش. ندی که. برای همه میگه که آقا جای شما دنبال مربی باشی، اون آدم تفاوت می‌دارد. بعضی وقتی جات میکند، آموزش ببینه، تفاوت منتر میشه، ها؟ ولی تو سازمانها شما از سوی نام داری اون آدم که همه بیکارتر و تمردها هزار تا مدرک داره. شما در طول سال آموزش آن را خرید ببینی. خیلی زبر بودی. احترافت برای خود مشخص بوده، خود بزرگسالی شخصی کردی. مقاله خوندی که در خوندی با استادی مشورت کردی، ها؟ پس بنابراین یک کشف استعداداست یکی که نیروهای تماممند و شایسته رو تماممند بکنی دیگه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تو کار مربیگری کمکشون کنیم که افراد در واقع خودشون مسائل خودشون رو حل کنن این هم نیاز به این داره که استعدادهای بالقوهی اون آدمو بهش بشناسیم <تصفيق> البته اصلا واژه مربی که میاد، اون کاملا کلمه‌ش درستش هم مینتورینگ توی لغت فارسی مربیه ولی ما اصولا وقتی کلاس فارسی درس می‌دیم، بهدیم صحبت می‌کنیم تو جامعه علمی هم این درستش اینه دیگه شما باید از کلمات فارسی استفاده کنید. مگه معادل انگلیسیش رو به دلیل که تعریف بخوام برن سرچ کنم شما تو گوگل باید نگا سرچ میکنید دیگه براتون نه بله شما میگید مربی دلیلش هم اینه که مربی جای شما بازی نمیکنه. کنه چیکار کنه به شما فوتبال یاد میده ولی خوش تو دروازه با میشه. تو قسمت دفاع با نمیشه به شما یاد میده آموزش میگه خودت عمل بکنید میگه که شما بتونید مربی باشید که نقش مربی را ایفا بکنید مطمئن باشید کارکنان اولا روزا شغله بیشتری دارن توسعه پیدا میکنن و در نتیجه قابل شما عملکرد بالاتری خواهد بود ولی بستگی به این داره که چقدر تایم داشته باشید چقدر دوست داشته باشید چون خیلی وقتا که کار مربی میکنن مربیگری میکنن باید این مقدار چی داشته باشد مهارت های کلنای شیدی بازخورشون خور باشه یعنی نقش هایم معلمی مدرسی رو هم می نکنن بتونند این فوق عنی به این حوزه علاقه من باشن مدیرانی که کم صبر هستن یه بار به شما یهیت یه رو بار دو سراعتتو داد میزنه این مربی باشه و پر باشه. یکی از کارهای دیگه اینه که آی است. کمک کنیم که نیروهامون از شکستا و ناکامیهاشون عبرت بگیرن، درس بگیرن، تجربه بیاموزن، یعنی چی؟ یعنی اینکه تحمل ریسک پذیر باشیم، تحمل بردبار باشیم، این اجازه رو که بچه خطا کنن، یه پروژه رو بهشون بسپاریم، البته ریسکشون رو کم کنیم خیلی ضرار مالی و دواقی، ولی اجازه بدید تصمیم کسب این خودش حتی ولی اینکه یه ضرر مالی هم بکنید، چون توی اون شکست و ناکامی هاست که تجربه کسب می‌کنه. پس برابای اگه بخواهیم که خودش مساعدش رو حل کنه، حتما یه حضینه رو براما دارید برای ما اسمشون رو چی؟ سر بزن این چند مطلب در واقع توی این حوزه ها ر قرار نداشت. من اضافه به این مطاله بکنم چون این مطاله به روزی که امروز مطرحه، اوکی؟ حالا هم که ازتون پرسیده بیدم میبودش که شما چقدر نقش های مدیریتی یا رهبری رو افاق میکنید؟ کدومتون؟ چه نقشی؟ توی اون حوضهی که من هستم، پنج نفر کنتروش، یعنی اون تأثیرگذاری و نفوذشون وجود داره شما زیر من. مجموعه دارید؟ بله بعد سعی میکنم روشون تاثیری مثبت بذارم دقیقا زمانی که دارم این کار می کنم مثل یه مربی تو ذهن خودم مجسم میکنم که مثلا کمکشون که مشکلاتشون کاشا خرک کنن یاد میدی بهشون ولی جوری که بتونی نظارت موید کنارشونی باید. همراهشون بیشتر نقش مربی رو ایفا می میکنی ولی باستان با خیلی انرژی زیادی میخواد بله و عشق بچه ها باز هم تکرار میکنم دوستان عزیزم بود خواهیم کنگاهی میگم بچه ها دانش پذیره های عزیزم دوستان گرامی. یادتون باشه هر کار نیاز به انگیزی داره انگیزش رو بگش علاقه است عشقه چون باید آشق معلمی باشی آشق آیتی باید باشی من کارم صبر و حوصله میگیره انگیزه هم در که دوست داشته که مدیر باشی بالاترین نشانه به که اینکه مدیر بشی و با دوست داشته بشی چون با تعامل با آدما کنی یکی بدخلاقه یک خوشخلاقه یکی مزخرفه یکی چه میدونم دستش کجی تو پاش کجی انمو احسان داریم دیگه درسته نه. که سمت پایین یکی فحاشی یکی بی‌تربیته انمو احسان آدم‌ها توی طول زندگی ما رو به رو ما قرار میده و تو محیط های کاری من تا دل اون با همشون کار می‌کنم این تجربه دارم. یا همکار بد داشتم بعد به مفهوم غیر اخلاق، رفتارا غیر اخلاق مدیر بد اخلاق داشتم که رفتارای خوبی نداشته، رفتاره چی داشته، بیادره میکرده، شعنه حسان ها همچی که شما بینید در طول این 24 سال، بین کارفرماها ها و بین محیط که خودم بودم در واقع این لمس کردم ولی حوصله میخواد حسن شما به رازی تدریس میکنین شغل اصلی تو منا حوزه مدیرم من و تو حوزه بازاریابی و فروش هم کار میکنم تو بحث های در واقع رفتار با مشتری، رفتار با مصرف کنند، ساختار بازاریابی و فروش فراینت های ساختار بازاریابی و فروش تو اون حوزه ها برای کار میکنند مثلا هم شما خواهی نمایشگاه داخلی یا خارجی شرکت بکنید و چه مسیری رو طی بکنید تا بتونید موفق باشید اینا بحث های بیشتر تو حوزه رفتاریه. هرانچی که با حوزه رفتاری برمی و تو حوزه معنو به هم بیشتر حرفه یعنی که خودم خیلی بهش علاقه مندم باز هم جذب و استخدام یا ارزابی عمل کرده اینا مثلا تو حوزه طبقه بعدی مشروعه کار ندید کنم من مثلا خبر خودش رو میخواد من تو حوزه نمی خیلی کار کردم من علاقه منم تو ساختاش را ولی تو طبقه بردی مشروعه نم حالا میشه یه آه... در مورد همین استقام هم یه صحبت کنی؟ بله میریم تو بحثش بله بله اگه اجازه بدید جلسه بعد در مورد صحبت کنیم امروزت که الحمدلله نمیدونم م. چه بودین این قبلا قبلن که آقای چیز برام چیز گرد کرده بودی مشکل یونیکد درست شد حالا استراتژی معنا به انسانی یعنی چی؟ بچا اصلا استراتژی یعنی چی؟ استراتژی واه رسیدن به هدف بعضی به واژه مترادف بله دقیقا استراتژی یعنی تکنیک های ما که میخواییم به اون هدفی که میخواییم برسیم یه اهدافی برای خودم که برنامه براش تنظیم میکنه و استراتژی هایی که تو اون برنامه حالا چجوری نمحقق کنیم هر کدوم از این بندهای برنامه چجوری؟ استراتژی یعنی راه یعنی الگو، یعنی نقشه، درسته؟ استراتیجی های منابع انسانی که تعریف هایی حال مختلفی هم براش وجود داره بله همش این ها بخار های منابع انسانی یعنی روح هایی که شما میتونید برنامه های منابع انسانی رو توی سازمانتون بهینه کنید و پیانه سازی بکنید درست جذب کنید، جلوز جبران خدمت کنید درست آموزش بدید، درست توسعهشون بدید مدیریت استعداد ها را به کار بگیرید تا زمانی که فرد بازنشسته میشه یا از سازمان شما به هر دلیل خارج میشه اینا برنامه منابع انسانی استراتژیات یعنی عملیات, عملیات، کارهای که ما می‌کنیم تا تمام این برنامه های منابع انسانی چیکار کنه؟ به شکل قشنگی بهسازی یا بهینسازی به بشه و اجرایی بشه، پیاده بشه. موساد یعنی شما یه ویژن 25 ساله داری برای هر کسی که استراتیجی؟ نه نه این ویژن شما امروزه در با برمزه استراتیجی میگه های نتاف پذیر باشه یه سازمان که سه ماه برنامهاش رو تغییر بده یه سازمان به 5 پنج ساله، بس پنج ساله نه اصولا توی سازمان ها بستگی داره که چقدر اون سازمان فلت و پویا باشه ساختار اون سازمانه خیلی تعیین کنند است شما وقتی توی وزارتخونه هستید شاید بله برنامه بلند مدده ولی اونا 25 پنج ساله نمی اونها میان الان که اصلا این کار نبن. چون که اصلاً بحث استخدام رسمی, دیگه, نداری. دیگه, بحث اصلاً استخدام رسمی ما دیگه نداریم اصولا قراردادا بین سه ماهه و بعد همچوری ادامه پیدا میکنن اگر عملکر مورد رضایتشون بود و اون فرد رو میخواستن توامندش به در بخوند برمیگرد و پارتایم میشه، تمام وقت، تمام وقت بعد میشه مثلا رسمی قرارداد رسمی, قرار رسمی منظورم رسمی ها و بعد از یه مدتی حالا بستگی به این داره که آیا وارد خود اون سیستم اصلی شرکت بشه یا نه ولی برنامه هایی که ما داریم برای جذب راه های درست جذب کردن فرد شایسته را انتخاب کردن حالا برای که چقدر با ما بمونه ما نمیدونیم چون جذب بمونم گفتم هیچ از صفر و یک نیست آزمون خطاست حتما هم صد درصد اینجوری نیست ما همه راه های علمی رفتیم ط برای همین میگیم یه قرداد سه ماهه میبندیم یه قرداد شش ماهه میبندیم تا ببینیم آیا اون عملکردی که ازش انتظاریم با توجه به اون شایستگی ها این فرد مناسب سیستم ما هست یا نه درسته ولی بحث‌های استراتژیک بحث‌های انتهاب پذیر بعد باشه بتونه کامل سازمان‌های های بزرگ کمی قدم های بزرگتری مرده مثلا شرپت این هم یا راهن میاد برای راهن الان داره سالی صد نفر استخدام می‌کنه. چون درون سازمان مثل شرکت‌ها خیلی بازنشسته داره میشه چرا اداره کارشناسی چه کارکنان کار نیرو باید جذب کنه مدیران نفت سی و سی و دارن کار همه 37 تا 36 سال در کار همه بفسیل شدن حالا سیستم خارج بشن سیستم نیروی جوان‌تر با تجربه تر نداره من باید یا از سیستم درون خودش آموزش بده مدیر پروردی کنه جانشین پروردی کنه یا از بیرون استخدام بکنه پس بنابراین اینا میام برنامه 5 ساله میذارم برنامه 10 ساله برای خودشون تعیین میکنن چون یه بیزینس مشخصی هم داره. ولی شما که یه بونگا هستید، یه شرکت متوسط هستیم بونگا متوسط یا کوچی هستید، شما باید برنامه استراتژیکتون چی باشه؟ منعترف باشه. و امکان داره سالانه این برنامه ها رو بریزید یا حتی شش ماه هست. من آخرین بار که آقای دکتر محمد علی حقیقه بحث های استراتیجیک را با ا میگفتن که داریم 3 ماهه یعنی مثلا تو دنیا داریم که برنامههای استراتیژی 3 ماهه میزنه ولی تو ایران اینجوری نیست چون خیلی موضوعی ما رو با خاطر نفت چون نفت داریم فعلا هنوز خودارش ما خیلی تحت تاثیر این سری مباحث قرار نمیگیریم ولی شرکتایی که بازارگاه مثلا بحثهای ارزی توشون خیلی یهو ها تحلیمای شرکت روشون خیلی تند اونم بعد سری تصمیمات دی... دیگه‌ای بگیر برنامهشون بعد تغییر علن بی او سی و اینا بعد تغییر بدن استراتژی های منابع انسانی که الحمدلله چه ختایی هم داره انواع استراتژی دوستان یا کلیه یا خاصه یک یا کلیه یا خاص وقتی میگیم بحث کلیه استراتژی منابع انسانی رو می یعنی اینکه در واقع فردی رو که میخوام جذب کنیم فرد شایسته با عملکرد بالا رو جذب کنیم تو فرایند درست قرارش بدیم برای اینکه میخواهم ما رو به خروجی درست برسونه یعنی بیشتر این چیزی که مد نظرشه در رابطه با فرد و چیه؟ ساختار سازمانه فرد رو درست جذب کنه تو سیستم درست بشینه برای دنبال یک عمل کرده بالاست خواستا چی میشن؟ اینایی میشن که خدمتون میگن آدم درستی رو جذب کنه چه کسی رو جذب کنه؟ یعنی اینکه باید بید بین این تو ها بگه آقا من میخوام مدیر بازاریابی قدر رو میخوام در واقع میره بین استعداد ها میگرده کشف استعداد میکنه من یه مدیر رو فروش بسیار طباب من میخوام که از همه رقبان بزنم جلو پس باید دنبالی چی باشم؟ مدیریت استعداد یا کشف استعداد باشم پس تو بحث برموزی بین خاصه همون فراینت ها, فعالیت ها که فرد مناسبی رو استخدام بکنه و چجوری در واقع اون رو کشف استعداد بکنه اونایی رو که داره توسته بده یعنی مدیریت استعدادها چون یه در را استخدام کنه یه درم تو سیستمش داره دیگه درسته حالا در واقع چه روابطی رو بین کارکنان باید وجود داشته باشه چرا چون سازمان دنبال این هستش که یه به سوددهی برسه دیگه درسته زمان به سود دیمی رسه یعنی بحث پاداش رو روید کارکنان هم اونجا دارید زمان سازمان رشد وقتی داره میکنه به خاطر عمل چیه؟ کارکنانشه پس بنابراین بگید کارکنانش باید پاداش در خرمونها بده درسته؟ چه معنوی چه مادی؟ همیشه هم مسئله مادی روابط کار کننچه چرا چرا که ببخشید تمام آنچه که ما دارم برند سازی میکنم آنچه که دارم با مشتریم تعامل تعامل بین من و تیممه هم؟ یعنی آنچه که در درمون سازمان بین مدیران و حال کنان اتفاق میفته و حالا برنامه های رفاهیشون چی باشه بیم و بازنشستگیشون چی باشه تمام اون مراتبی رو که جز فعالیت های کلیدیه در واقع منابع انسانیه جز استراتژی های خاص میشه که برای هر کدومش شما برنامه باید داشته باشیم درسته؟ تو سازمانه شما برای کدوم یکی از این فعالیت های کلیدی برنامه مشخص داره؟ برنامه ریزی که اولین روک نشده جورایی. برنامه ریزی گلن مهمترین رکنه یه صاحب ما بکنه آره دیگه درسته؟ بعد کشوری که بعد اینکه که حالا میگه شما ها که دانش های رو توی سیستم های خودتون دارید یه تجاربی رو دارید مثلا یه واحدی رو از صفر تولید میکنید ایجادش میکنید فرایندشون میگه این دانشو. یه نرم افزار تولید می‌کنی مراحلش رو چیکار کن مدیریت دانش مدیریت داده اینا رو بیا ثبت و ضبطش کن دوباره نیروی جدیدودی نره چرخو از اول بسازه خیلی فراینده رو من که عوض شدم دوباره نه از اول بسازه بیا چکار کنه دنباله کار رو بگیره این نیاز داره که شما چکار کنید مدیریت دانش هم تو سازمانات رو داشته باشید برای همین میگم وقتی کتابی میخونید به دانش, رو, دانش رو میگم میگم کتابی رو میکنید خلاصه کنیم کنید ازش داریه. همین انواع مرد رو برای زیر مجموعه رو گاهی تو بین خودتون که جلسه میزنید، ستا پاورپون ببین ببینید، من این فتح جدید جهدی کنم، این خروجش بده، دو تا پاورپون در موردش توضیح بدید این رو یه جای سبت ربط کنید، توی واحد خودتون یه تغییر ایجاد میکنید، میگه آقا ما که روی نحوه بخور با گروه های غیر رسمی این موزهدات رو داره. اینا رو کتبی کنید، مستند کنید، علمیش کنید، اتاق فکر توفان مغزی، بغضی توفان فکری ایجاد می‌کنیم به یه راه حل می‌رسید اینو به عنوان یک گزارش که 10 تا پاور پوینت از توش آماده شده یه جایی تو بانک اطلاعاتی مدیر دانش بزنیم مدیرای پنج سال بعد ما که میان یا تو یه واحد دیگه هستن اینا رو مطالعه می‌کنن به اونا هم کمک می‌کنیم میگه این خودش در راستای چیه همون توسعه هست م? شما میرین یه سفری تو خارج از یه بازدید از یه کارخونه ای انجام بدید گزارش دو بذار پلی سایت سایت کجا تو قسمت بانک دانشتون مدیریت دانشتون ببینید اونجا اینکه تجربه بشه که همه شما که رفتی آلمان بازدید داشتی شاید نشه یه این جلسه کاری برای بده ولی گزارش شد من میتونم بخونم سمیره میتونه بخونه خانم مه قنوزادی میتونه بخونه درسته میشه مستد... من همین هفته پیش که دانشگاه الکامپورد یه سال رفتم بعدش رفت کار بله آنالیز کردم اونجا رو بله. رو گرفتم مثلا یه گزارش آماده کردم گزارش آماده نکردم ولی از بین اون چیزایی که گرفته بودم از اونجا چند تاشو انتخاب کردم که به مدیرای مختلف سازمانمون بدم حالا به نظرم خیلی جالبه که این قضیه مد دو طرفه باشه چون اگه یه طرفه باشه اونا فکر میکنن که مثلا من دارم خودشیرینی شیرینی اونان... می‌کنم چیزی به شما بگم من خواهش که دوستان، ما با هم ما کارشناس داریم میشیم به هم رفتیم هوزاب. اول می‌حرف بذاری کارشناسی سوال کنم. اصلا مهم استش که نبیندی گامش باید برم. کار دو دستور. از خودم مدیر، خود مدیر. از آموزن. شما هر اگر ناخالصی در خودتون نمی‌بینید، مسیرتون رو بید. شما گزارش تو لازمی ده صفحه بدهی. دو تا پاورپوینت آمده کنم. بگم من از این بازید به این. خروجی ها رسیدن. نه. یکی که اولا دیدم که مثلا این شرکت های به من این کار کارارو کرده بودن که میتونه در آینده ما هم اینو وضعیت رو بهش توجه کنیم یا این مورد ما تو سازمان رو ندیم این مسئولات جدیدی بود که اطلاعات در موردش نداشت این مسئولات جدیدی که اونجا ارائه شد و در نهایت یه ارزیابی دارید، مثلا یه ارزیابی می‌کنی که آقا جون این روند بحث مثال رو رفت. آی تی روندش توی را می‌تونه چی باشه با توجه به این چیزهایی که دیدی شه دیدی فقط هم این دو تا پاورپوینت پا تا چهار تا رو به مشاهده مشاهداتم این دریافت منده. این ادراک چی بوده؟ من از این نمایشگاه بوده. حالا همکار شما چی فکر میکنه، مدیر مستخدم شما چی فکر می‌کنه؟ مهم خودت چی کار خوبی. من جو باشم مستردم. حالا میدونید چرا چون من خودم یادم میره. میگن که هرIde به ذهن روز یه دونه قلم کاغذ مشخصشون چوش بنوزه چون ایدا دست میره. مثلا رنگی خود از قوی ترین حافظه ها است. به خاطری که بله مباحث اصلی و مهم بله ما تو ذهنم میمونه ولی مشاهدهات یکیش یادتون سه تاش میره. حداقلش این خیر و برکاتش بر خودت. ولی من باشم این خیر برکات و برکاتو خوبساز خاطرشون دیگرانم دیگران هم, هم؟ هیچ اشکالی هم نده و اینا و یادتون هم باشه هیچ کسا میتونه اینو یه دمانی هم همکار به شوخی، به مزا آخه خودشه. ای من این یه کار کارشناسی کردم. نمی الفاظ درست کلمات تحصیل گذار یاد میگیره دیگه حرف نمیزنه. آخه جنب کاری ایرانم یه جوریه که پشت سرت میگن. دقیقاً ب... هم نمیگن ب... مهم مثلا میگن مساف پشت من ما بعد یه دفعه وسطی از خواب بیدار میشین کل سازمان دارن یه همچین چیزی داره. یه, <تصفيق> یه چیزی بهتون بگم. اصلا مهم نیست پشت سر چی میگن. ما دارن که پشت سر ما حرفی بزنن که درسته. اون موقتاً بگیم اشکال نداره. مهم نیست. خودم تصدیق کنم. اشکال نداره. ولی اگه مخربه همیشه هستو. حس انت عبد خدا یه چیزی هم دلاز... بهتون بگم یادتون باشه خیلی اصلا اینم یادتون باشه شما محبوب همه نیستین. نخواهید بود و محبوریت داشته باشی اصلا یکی از کار کارهای کله بیگری یعنی که محبوبیت داشته باشی محبوبیت اجتماعی داشته باشی. ولی واقعیتش که همه خوبم که اینا سینمایی که مثلا سوپر استارای دنیا، دلارمردا، هنرمشا تاپ ترین شو مثلا تو کل دنیا، یه یا خوش ولی شما موفقیت خودتون رو در نظر بگیرید و جنبه های مثبتش میگم هر گاه که دیدید مسیر درست دارید میبید. ناخالصی در شما وجود داره مسیرتون رو ایدامه بده اجازه ندید هیچ اینجا مانع شما بشه ببخشید، شما بفرمایید یادم ولی، در فرید حرف شما پاسا از اوصای اون چه واسه صحبت اومدید از دستم در میره اوصای می‌خواد بفهمید یلا ان اقتصادیه یعنی چی چندین جملات و فلسفی می‌خواست بود درباره بگه یه چیز در این مایه بود که کنم چیزی مصاحب که یه سازمانه مثل سازمانی که ایشون داره توشون کار می‌کنه یه جایی دیگه <تصفح> وسیع هستن و مدیریت‌های خاص خودشون دارن اینجور موارد اصلا موجب تغییر جایگاهشون ممکنه بشه اینجور موارد که کار نلش که دیگران چی فکر می‌کنن ما کار خودمون رو انجام بدیم و اون که اصلا جایگاهشون از دست بره. اینی که یه جای ملاحظات اینجوری تو های ایرانی متأسفانه وجود داره. نه ببینید حتی شما کار کارشناسی علمی وجود. ببینید، هیچ چیزی بهم نمیاد. ما کارشناسی نه،, نه. نه. علی یه چیز بهم نمیاد. مدیران مدیر برنامه. من یه گزارش پیر. بس کار دوره. امکان نداره منو جلو پز میده. یا من آقای مهندس یه گزارش خوب شد تو خودش، بهش احمده چون به کار درست کسی نبیدونه شما دیدی کی به نفت داره؟ یکی بچه معدم که میگه حالا بد بکنه؟ کی میگه که یه مرد محترم و شایسته یه شایسته یه زنی خوش رفتار و بده؟ چون آدمها موقعیت اجتماعی خودشونم در نظر میگیرن ببینید شما کارهای درست و اصولی که از نظر همگان خوبه، اجام بده که هیچ اون گزارشه ایشون ما نمایشگاه یا به هر دردی خوش رفته دو تا پایپورت آمده چی؟ هیچ که امکان نداره بگه کار کردی؟ مده آدم چی با کتا... کتوله که بگه خودشیده؟ با همونو ضربه میدونم ولی لازم نیست اخی به مدیرش فقط بده اون میتونه به تمام همکارش بده اتفاقا من این کار کرده با قبل این آره این مسئله اینجوری نیست ما خواستم یادمم به این نکته دارم یه موقعی هستش که بله ایشون برای بله من که تو حضر منو به انسان نفرسته <تصفيق> <تصفيق> البته اگه برای تو بانک اطلاعاتی مدیریت دانش خیلی خوبه همه میتونن ولی کار داره به همکار خودم اصلا به همکار خودم غیر پاپاپ من کد یه جلسه میذارم میگم بچا دریافت های از این نمایشگاه این بود از حتی حضور تو قرفه خودمون بود این مشکلات دم این خوبیا رو دم ها موایب بودیم از تا اینا هم به مدیر عاملشون بده این زمانی که ببین من کارهای غیر نور یعنی این اطلاعات فقط برای شما تیم مدیران من خب اگر خودم تو دیتای آیتی هستم کاملا مربوطه اول به همکاران میدم یا اول برای مدیرام میدم رونوشتشام هم به همکاران میدم یا اصلا میگم که به همکاران میدم بگم که من شما من اینا میخوام برای مدیریت بفرستم یعنی میگم من شیبانی از تیم آیتی که رفته بودم به این فرجا رسیدم من نماینده تیم هم, هم دیگه این دستگی داره که شماش چه شیوارش بعد بقیه مشارکت بدی بقیه رو بهشون یه یه چیزی دیگه هم بگم بهتون یه شاکلیده دیگه تو ارتباط ها یادتون باشه درک کردن دیگران حتی من منبوط مواقع است خواست خودشون تو کاروگاه رو قبل گذاشتیم و خواستیم رو اینه که به همه بگیم که هستی هستیم ای زمانای این زمانایی زیراب زنی کسی مقایی که ما بهتون میگیم که تو چیزی نیستیم تو بازی نیست؟ نه تو بازی، کسی نیست، عدد نیست توی جوجه، دو روز اومدی، هنوز خوش نشده قرار داره اون تنظر هست، همه؟ که خوبی داشته باشه به همه میگیم، به اونی که یه روز اومده، من شعبانی <تصفح> یه روز بارم جازه تیم آیتی تا اونی که 15 ساله با تو همکاره، چکار میکاره؟ به همه این گزارشان برای همه توضیح برای بودم مهمه. همه گروه برای من مهمه و جایگاه ویژه‌ای داره چه اونی که کارشناس سفره چه اونی که کارشناس ارشد کسی بودن اگر لحاظ بکنیم خیلی وقتا اینا از بمیره ولی نه چرا چون آدم‌های بدقلق که یه نوعش از آدم‌های غزا افگو چه شما خوب رفتار کنیم چه بد چه متوسط اون همیشه اصلا شما گزارش نده شما گزارش داد شما را همینه وسط حرف در میاد می‌چگی رفت بود مودی اینجوری نشسته بود گوش می‌کرد می‌خواست که خودش از هر حالت شما حرف در مثلا رب با امن فرادت نداره اگر از اون آدم‌ها داشته باشه اون آدم‌ها رو چجوری بعد رفتار کنیم باهاشون تکنیکش چیه بچسبوننش گوشه دیوا نش اهمیت نداره تردش کنید تو تو تیم تردش کنید آدم های حرف در بیا رو بعد اتفاقات خوب اتفاقات خوب تو را هموندی چه خواهد سو تازه الان <ها>. انرژی گرفتین بله، بله <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب، یک کیس داریم اگر اشکال نداره من بخواستم گروه اینو انجام بدیم ولی پیشنهادم اینه که اگر میشه سه تا سه تای اینو انجام بدیم تو تو تب خروشی میرسیم به ستا تو تبگم دوستان عزیز دوستان عزیز یکی از خانوما به این جمعه پیوندید سمیده‌جون یا شما با این جمع باشه با آقای سلطان این رو آقای برایش؟ نه با این جمعی؟ با شیطونا؟ آقای سلطان, <تصفيق> <تصفيق> آقای سلطان شما با اون کلسای جدی محترم آمیز رفتاره وقت بسید؟ شد تایی بشه، هر جا دوست داری بشه، برید تایی کنید، هر جا دوست خب، یه خواهشی دارم، سعی بکنید در عرض 5 دقیقه که متن خوندین یه 10 دقیقه با هم مباحثه کنید بعد جواب سوالات خیلی مشخصه خیلی بالا پر لازمه و چه ارائه هم باید به من بگیرید تا یعنی اینجا بعد از هر کدوم از گروه‌ها یه نمایندهام داشته باشم که بگه که چه به چه خروجی اومدین متشکرم از همه همراهیاتون جلسه آینده جلسه فشرده ای داریم چون تمام این بحثا رو یه کوچولو باید بریم تو دلش تو جز توی نگهداری کارکونات تو روا به فهم یه کوچولو یه کوچولو باید بریم داخل یه کمی با حوصله بیاید از این صبحانه انرژیزا زا کامل بخورین بای بگو مرسی اگه دوست داشته میشین فیلم هم برای تو میارم اگر هنوز تمایل داشته بیشه مثل جلسه پیش بمونید و نگاه بکنید تمایل دارید؟ بله تماییون دارید امروز بله. اینی؟ داری. بله. نه نه جلسه, جلسه آخر یه دونه بله فیلم هم در رابطه با اگر بشه در رابطه با یا مربیگری گوشتادر فعال اگر دلتون بخواد به یا در رابطه با یا عملکرد مدیران یه از این دو تا؟ فی هدف هر دو تاش اولیه گوش دادن گوش دادن و مربیگری از هر کدومش میتونید یکیشو انتخاب کنیم دیگه <تصفيق> صورتش قرار میگیره. صورتش اون این دارون رو بخوره. اینکه باعث باز شدن استراتژی روشه داره بسته از این مرحله یه چیز خاصی از شخصی آره اون رفتارش هم انقضات نموالین رفتارش بس چه شخصی روش تغییر راست نمیشه تو توانی بس میشه نموالین زیاد کردن اینشان این شانس قسمت اولش چی واقع شخصی من و اس کو نام استراتژی مذاکره چون نمیشه. یعنی زیاد نمیتون مشکل انتخاب داشته باشن شبان از از هرچی با شوشوش با تنسل ایسی باید میاوری رسی رسی برای رسی باشه چون رسی این برکنی شد یه زیاد خود چون باز از اینو خاصه ما فکر که tak o się coś usłyszeć ja na razie zobaczyć co się tam dzieje czemu بذار پایین تعلیق کنی. آخه که و یه طرفی طرفی فرده. خود فرد مناسبش رو میچ. چون سازشونش بیان پیشنهاد داده باشه، احتیاج ما اسمت خود مولتی با است موانه موانع، و موانه سیخ منی خوفایی اینجا در فیرکنه ایسا سالومانی هستیش اینجا که مورد تفیصی بودی کنی دو تیمایی نیستش در اینجا چه موانه یا موانه های ارتباطی بیشتر از ایشون هست شد برد بسید چه موانه یا موانه ارتباطی در واقع سیم ایسی هست یا موانه که هست انسانیک انسانی خب اینی چه چیزی؟ مجموعه این؟ چیه؟ چه موانه این؟ عدم تو چه نوعی است؟ چه نوعی است؟ چه نوعی چه نوعی است؟ چه چه نوعی است؟ چه نوعی است؟ چه چه ما نه تلفن به آیش بیاین بشینید و هم این برنامه که موشات اول از همه ساش و به هر هنیا گوش می‌کنم که رامین همیشه چه مردن یارو اخبیسی؟ اصلا شده شده اصلا هیچ کجما شد خوبی نداره. خوبی بردارد این انسانی همان به نوعی ناراضی تبدیل کرده هست یعنی هیچ چی؟ یعنی یک خب سه که زونو چالو می با که که است. شما یعنی به اون بخواه من نمیدینی به هرمانشم باقیانی آره من نمیدینیم از توی مزد برد بخواه باز مزدنه را آنالیست کنیم چون نمیشه همش باشه اگه همهش یا رو از اون استخدام نمیشه دیجا نا من رو میسونمونم بازارم آنشب این شد بسیار جنگیست این یک ترانه میشه توی اون هفت سال باشه که خدش بزنیم اه همین جدیگن از این هفته آمد میتونه جزء یکیش باشه بیره من جزء هستش ما باید ما خط بدنیم بایدتون ایشون کامانویش درست میشونم دو تاویی دو جزاره سه درمانه یکی اتاستش میگیم شبجید یکی از ولی خب بعد میاد خواهیم میبینی که یک آدم بسیار مختصر سخن میگه و پشت میز خودش نیست مردم این, این آمرهی که در که با اون هفته بعد مقایستش خیلی شو. من از الان که گرمگرایشون گرمگرایی بیشتر کاره مثلا شون لازم است نیستن. از که هم هستیم. از آنها هم هستیم. از آنها هم هستیم. که آنها هم هستیم. هم هم دومای با... 10 ده چند تا سند داشتن اونجا چشم پوشه زدم و بودی گزارش کردم که قابل آها خب ولی جدی است مدیر میرم علی من اینکه تلفن باشه چه در داشتم با هم میگوشی، هجار نده با داشتن نموشه فعال کردشیم من یه سیاز <بطلون> و بزرگی ارتباطیم این طرف اصلا منظری میمانه بعد میگه گرام ازش این آنه بسیار مرسد پس میشه ما از اونجا اینطوری بخوام فکر کنه باید همه رو بنمیسیم دیگه ما نمیدونیم که چونکه همه ناراضی هم پس همدلی هم این هم ولی میگه اون مصور که نوشته یه داستانی داشته که ما از توی اون آنالیز کنیم اینا رو درگیار سهدیم میره خوبی سهدیم حالا مصور مکنون باید با همه ست جوربش میشه که پس من لازم است که این سند را حسابляю و هر یک از این خب، این موارد رو حداقل کاربر بکنه. هیچ شو جانی آری جانی کی آری جانی کی سسلا نمیتونه تونه تمام مالیات خونه وارم با کارمنداش به طور پاره چینی بده احساسی آره بعد اینو من فاکتور شاملمات براسی آره اینا باشه این آره باشه اینا رو اضافه کنون <تصفح> ولی بله آخه چون اینجا گفته ارتباط موثره و اینا جزه ارتباط معصر بیه اینا میشهدن از هر و همینو میخوامنیم بایده میخوامن من هم که گفته بود تو با در از و همدلی. به این، با چه مهمت بودی باید خوشدادن؟ همدلی و همدلی. خیلی کار کنید، ازش مرقه باشد، Hep sabırla müşahede yorumları, maddi ve آمود بگر شما بزننم نمیتونم که چی دویه جما به شما چی درم داری؟ یه دتیم داری؟ آمود بزنن؟ این شمیت میگویییم شمیت هستش و اگه منم و پارن هاشا و خب نه، اصلا من این جمعه اصلا یکم تناقض به عمل کرده کاری خود را برای ارتباط بازید؟ آها، نه درسته عمل کردن کاری خودش را با ارتبال ترجیح اصلا ترجیم میده و با خب، دوست فرگی خب چی شد؟ درست کنون می پیشکلش بیشکلش، بیشکلش، نیاز شما از میکنفون اصفاده نمکنیم؟ نفردو تو شما از شما صدای خودم زیادی بلندیم آقا جرمایی پشتونه نگشیم اینجا بود بله دیگه، یه <تصف> <تصف> دونه بعد، انشانه، قرار نسلنشانه. شما قراره کیس رو حلبتر نسخه نسخم به من گروختون بدیم اینو میدیم تو آره ولی به نظر میاد که اگه که دروش تاب و مبارک هم پشت بزنیسی چشمای مبارک بهتر ببینه و در شما هم با یه خط خانه تمرین خط هم کدوم. چه خوش لذت داریم خیلی سعی کنیم سعی نمیکنم. شما نه نه نه نه نه عشق دارم سالاورین برگاه های شما مثل برگاه های نامه های عاشقانهی میمونه که به من دادیم چون خروجی در واقع دریافتی منه از اینجا بله دیگه شما به نامه های عاشقانه و ایمیل و اسمس های عاشقانه فکر باییم من به این کیس های عاشقانهی که شما برای من خروجه به جلسه ایسا ای ای شما فکر کنم من فکر کنیم خوب خادرشه این سه جلسه می‌خواهم ببینم که چه آموخ من تونستم یه کچولو، یه کوچولو اصلا می‌ذارم یادم یه کچولو همون جلسه اول چیزایی که گفتید <تصفحنت> من کلا رو همتا بزندگی من استفاده کنم خوب خدا باشم، خیلی خوشحالم چونکه من یه چیزی به شما منم از شما ها آموختم توی سه تا جلسه و انقدر حس خوبی به تون به من میدین؟ ای کاش، ای کاش که میتونستم بیشتر از اینا ببینمه چون ای کلاس های بیشتری در خدمتون باشم خب، کی گفت به داده این فلاش های من میرسه کدوم؟ من هست دادم، یکه تمام نشده کلاس مرد خوش پردو شد قطب نه آتیبرس هم چیزی دهید نمیاده بخشم قربونه دستتون هم برم نهستیده بدم؟ به نه آتیبرس هم همه رو میکشه؟ فردست همه رو؟ ایشاده که اونا رو چیز مثلا فقط خواهشم هم که اعتماد دارم به اعتماد دارم به شما خصوصی هم بکنم دارم خصوصی هم نه، غیر خصوصی هم نه نه، هیچ نه چه با فلش تو نمی‌دونم که حالا دستگاه من نیاز حسابیش خلاص یعنی من یه تلاشو وارد خودم می‌کنه اسکن می‌کنه و اصلا با... من برای همین یه مقا ترسنده دارم شده. چون این فلشای من خیلی با بحث مختلف کارفرماهای دیگه خصوصی که میگم منظورم چیزای کارفرماییه می... مثلا نمیتونم اطلاعات دیگه شرکت و دیگر همین یه دبابس واسه آقای مهندسه اینارو گذاشتیمو بخریم پدر رو خریدی و تو بعد شنبه خریدم. سطح دادو با هدیه میتونم؟ نه نه. تو دامشان چطور است؟ نه. حالا شاید بتونیم از این کفشون که خریدی کرد آره. بعدی چند علاقه ای که من دارم یکی توی باغم توی تپورشیه و کار. برای مثل من من یکی. هیچ حالی دارم خان خازنی همچین برنامه میخونه هم مطالعه میکنم هم میخونه هم کتاب این کتاب آبی. این و وسطه دارم. هر کدوم کدوم کدوم. انگاری نبود که یه آبادشوی خلاصه است، آشکش نبود. علی رغم اینکه من ادیت نشدم، فوق العاده همون خانواده ام من گفتم، مامانی چند زمان همه خانواده من هم. بابا این کتاب یه دلیل دو تا تو نرسید که دوکنات ازش نه، نه هست. یک کتاب چون من دوستم استنک تا دوست دارم، من چون خود من همیشه که خیلی ما ما از خطا به دست بودیم جوانان رو کمک میکنن که زودتر از این در واقع یعنی همیشه درم که کاش من رفت آموزش بردش بکنم اونجا در این که مثلا بچه های درس میداد درست, درست بهم به کمک میکرد چون تو اون سن میکنی اون رو بزنیم هر کتابی روی، چه مرتبط، چه غیر مرتبط، غیر مرتبط دنیا هم مثلا همه، غیر مرتبط، سازوانی به شمرده بایرم در جسر همخوری دارم و هم جالبه یکیشون می خیلی بامازم، میگه خانم اون هر وقت میرم خونه پاویپونتوی شما رو با خانمم دوره مگودم خونت شوخی رو نرس بیمارستانه همقدر خوشش میان و خودتا بخدا رو شاید که هم بدانم که من نه، علم از از وقتیه واقعا آره اگر میتونی دادم دوتاشو با به چیز به آقای این چیز بود دادم به آقای اون یه دونه را انجام بدم دست در نه اصلا من واقعا من میگم میگم اگه که از کودکستان ما های زندگی رو بهمون آموزش بدن بعدن داشتن مشکل نمیشه که بیان این رو بخون بخوان. ببینی ببینی. سر ببینیم زندگی اصلا به ما آموزش ولی آموزش و خیلی هستی رو... شما, شما چجوری دوست پیدا کنید؟ یعنی چی در بی دوست؟ یه دوست کوچولو تو مهد کودک توی پیش دبستانی چجوری با دوست تعامل کنین؟ از بین دوستا چجوری بتونین از بین اون 20 تا 25 تا 15 تا یه دوست خوب پیدا کنین. اینو بعد یادت بدن دیگه درسته؟ چجوری مؤدبانه صحبت کنین. من دوستم دو روز آقای کاشه بچه‌شو درست دروست دروست دو ماه ما کساناتم کنم که دو سالشه دو سال آبان رفت تو دو سالش تموجه میگه سیما هنوز عمرم کسی بچم اضافه تو کلامه بودی اوردی واسه گفت قبطلا مخوخه گفتم اصلا ما کلش نشون نده چون زبانشم هم خوب نمیچرخه سیما بعد دو سه روز میفهمی کشف میکنی با اینکه چی گفته قولم هستی ما میخوام یعنی که این این مونیت آموزشي کودکان ماست. می‌دونید پتانسیل. و خیلی چیزایی که من تو مهارت زندگی برای شما tie شرکتیتون رو به درد افاده دیگه شما تو تعامل و ارتباط و مذاکره کردن بلدی تو بیزینس هم به درد بخوره. توی جایگاه دانشگاهی تا می‌تونی با استاد تعامل کنی. ده. درسته؟ الان یکی از مسائل اجتماعی که ما می‌دونیم ما اینندس تمام استادای راهنما همه شو نه آمد از بچه رو بالا رو کاره دارم به چی کاره یاد دارم؟ آمد که کاره نیست دانشگاه دولتی دانشگاه های آمد اصلا نامبر خب ببین چون یه خانم یک چشو باید بس من تا اینا چقدر این موردم سینما با دوستان, با دوستان با درسته این درگر، کن، یعنی تو فکر تا این اندازه؟ خب، شما در کودکی باید بلند بشه چجوری از خود محافظت کنید و چجوری بتونید آدم رو در جایگاه خودشون چون برونید تو کار داسی ببینه. آفتان آنهاستان، تو شما از پروژه <تصفيق> <تصفيق> ما یعنی ما که خیلی مواحظ، انتر بکشت یکیسی به داد این ناهنجاری های اجتماعی ما میرسه اونا چه ورش و این برای آقای که تو ماجراش برای خرافات خرافات؟ خرافات. چیزایی که اشتباهه، چیزی که معنی نیست که خودمون. ما جلسه داشتیم که هم یعنی ایشون برای با مهندسی در بود بود. که ما خیلی چیزه اید درمونده چیزم بدم از کنون داریم قدار پسشم یه درمونده امینم، همینه رو میخونی؟ ما اندس؟ سفی هم، چه، نه یه توسیره بکنم، فیرست بشه بکنم نه، یه توسیره بکنم، شما به همین برای خریدن کتاب، روش برد داشتیم خیز زندانی من و شما کتاب رو بخرید که تکنیک نه نکته هایی خیلی در مباحث کلی دیستئوری شما لازم نداره این همین چیز در مورد مردا بدونی. ها که شما ببینید یه اجتماع بعد از چجوری کار رفتار بکنم چه زن چه مرد کافیه. وقتی خیلی حجم باشه نمیخویم. وقتی خیلی حجمه. مثلاً مثلاً وقتی خیلی حجمه باید پاورپول در بیاریم. عادتمون چه همه محتوا یادمون نمیشه. همه کلیات همه خلاصش بره خودم می خوام برم ثبت پاور حالا پیشنهاد میکنن کتابایی رو که هر کتابی رو که می خری کتابایی رو که چلو می دونم رمان می خریم آره یه رمان می خریم خیلی به ما یه حالی بده چندین جلد می خونیم لذت می من یه موقع هستش که ما از این کتاب یه فلسفه شدیم از این کتاب دو صفحه شدیم کتاب کتابایی رو بخریم بریم منم کارو تمرکز میکنم تو کتابا دیگه نه اینو این که بحث تئوری رو به درد من میخواد ولی برای شما ها که نمیخواد می تدریس کو میخواد شما اجرایی هست مدینی صدایی رو بگید به شما یاد این درد شما می یه رو چجوری عملی بکنیم؟ من بنویسم های خود چجوری چه یه کسب هست با کار به نویسی؟ کتاب های چی بیر؟ البته یادتون باشه کتاب هایی رو بخنیمانی و, و مترجمه های قدرگیشون شما بخنیم بخونیم، او بخونی. اوکی؟ اینا <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> برای این فقط اشکالی نداره اگر... شما عملی کردن دانستاه نه این کردن تاورا رو حالا اینکه اینکه خوبی کن این زنگاشو یه حال می‌ده دیگه ما رو تحت تاثیر می‌کنه نشستیم یه قهوه می‌خوریم یه مثلا سیگار مثلا پای رو مثال زدم خانم ما نمی‌کشه نه قهوه می‌خورید با هم یه چای می‌خارید یه قهوه می‌سروشین یه حال کنیم که تاورا نگاه کنیم حال شما باید هستاد خونده باشه بگیم و بگیم بگیم بگوستید ازم الان اگر که بگیم چی چیزایی تو هرتبا مرسی برام ارهایه کنی باید باید تحریر بدیم چی کتاب هایی رو تو همین هم بمشید اوکی نه خب اول بگی باید باید شما باید تحریر مثلا بگید که من اگر بخوام ارتباط ارتباطت هم تر بشه، مزرگ قوی تر بشه چه کتابی بزرکونم کتاب به این درمان من اگر بخوام قلیر معصقه باشم فکر میکنید که چه تکنیک هایی؟ بعد موقع کتاب رو میتونم براتون چیز بکنم در واقع یه سرچی بکنم براتون اونا رو ریس کنم مثلا بگید این کتاب رو به دردتون بخوره مثلا یک کتاب به دانش رای اوزو دادم یک کتابی هست کتاب کمبرگی نیست من این آی مهندس کاشای شیبانی هستم دارم گوشو میموستم دارم من میدانیم گوشو کمبرگ نیست سخت نگیریم این مهم نیست تاگیست. ما دیگه ما من دلگه دلگه دلگه دلگه که هست تو دلگه دلگه دلگه. دلگه ماله. ماله. ماله. سخت, ماله. نگیرید. سخت, نگیرید. سخت نگیرید. این مهم نیست. این مهارت‌های زندگی شما داره به شما ولی تو کارتون 100 درصد تاثیر داره. من تو دهه‌ای که این کتابو خوندن، یکی از چیزایی که از اشیای گرفتم این متو آرامش درون داشته باشه. چون من اصلا کلاً ذاتن آدم دلشوره ای هم. یعنی همیشه یه چیزی رو برای فردا دارم میگه تاش چی انطاقه می میری چی دی کارت انجام. خیلی خود تو میگه یعنی سادگی من همیشه نگرانم ول ناد این کاره و این دو هفته که به شما گفتم کل کتاب هم نوشتم بگا اون رفتم خونه که اینجا که رفتم یه ناهار خوردم میشینم مشقام بنویسم مشق کاریمو یعنی می بگم خیلی وقتای دیرشوره شما رو رها می اصلا چیزی که برای من جان؟ تو کتب بود؟ نویسندهش بلاش ها اشتباه نکنم قرشه داقی، قرش داقی یادم کتبش از آنه تو ماشینم دارم چون برای پروز تمام خری در ماشین هم هست. ولی میخوام اینه بهتون بگم. خیلی کتاب کار میدم چون که دوست دارم. یه بعد دوستان خیلی خاصی هم دارم. انبو همون که شما هم دارید و, و خیلی هاشون ایران زندگی نیمکنه. این ها کتاب هایی کتاب هایی سختشون هست. کتاب هایی خیلی خوب. اونجا دسترسی ندارم. توی ایتالی یا تو اروپا سخته دیگه و بالاخره کتاب حوصله میخواد باید برنگنام مرجع مر... اصلی دیگر رو دیگر خیلی کتاب فارسی تکنیکالی بیشتر به درشون چون آدم های هم هستن بالاخره یه بیزینسی برای خودشون کتاب همینه این کتاب عملی کردن دانست کتاب کمبرگه خاش اینو بخونید به خاطر اینکه این کتاب به شما میآوزه یه دوم بخری بر کتاب اونه شرکتتون زیره همه استفاده کنم بهتون میگم بعضی چیزها مرجعی شما داشته باشید اون کتاب رو. این همه این کتاب ها رو نه خ این کتاب به شما کمک میکن چون خیلی به میرییم ما خیلی رو روخواهی کاشه میدون تجربه داریم مثل مدیریت دانش هست بانکه وجود نداره و دست میره. چرا بهتون گفتم که یه یاد باشه کوچولو من دارم تو کیفم یه دفعه هر ایده به ذهنتون میرسه بنویسی اون مدت‌هاس با چنمون داریم در رابطه با یه موضوع شخصی فکر می‌کنیم قراره که خودمون رو بدیم ها همش ذهنمون نمی‌خوابیم میشیم سر کلاسیم توی پشت رولیم روی موضوعی فکر می‌کنیم قراره, قراره که ایده بدیم اصلا نمی‌دونم تا چه ایده برویز بگم یادتونه یاد داشت و خواهش دارم هر کتابی رو که خود نخ خلاصه بریمسی که نکنیم. من کاره نشدنی نمیخوام. من خودم آدم عملیاتی کتاب میخونی، یک دونه آچه ازش بریمسی. دو صفحه پاورپونت ها ازش برا خود تو بزرگوش کامپیوترت. چون یادت میره. چون شما فکر برو من چیکار میکنم. من خیلی وقتها برای مرور کردم میرم پاورپونت ها نگاه میکنم. چون،, چون یادم نمیم، کتاب ها خیلی یک کتاب خلاصش به صورت الکترونیکی هست، خلاصه هاش نگاه کنم چون وقت ندارم، شما میدونی ما مدیریت زمانه دیگه، ما دنیای اطلاع چون وقت خیلی بدجوره، هر چی میخونی، سریع فراموش بله هر کتاب بیام میخونی، مثلا میخواد مراجعه کنی میدونی دلیلش چیه، دلیلش چیه، شما بعد از این چهار جلسه یه بحث ام بی ای که من به اون کار نمندم اون یه بحث مدرکی که شما شما کلاس شعبانی تو هر چیکار که میگه, میگه برید اینو دوست دارم اینو دوست دارم همون ها رو بیار چیکار بکن یا برای خود یه لیست آماده بکن زیر شیشه میزت من خیلی وقتا میگم پاورپوینت‌های رو تو دوستت مثلا یک شش شخصیت شیشه چرا چه فراموش خوببت دی و آها، چاری با آه. پول رو روییز مذاکره ترک نکنم رابطه بربر این ملکه ذهنره رو در این رو فرمول رو داشت برده رو در پارکینگ به چسب بود. زمانی فراموش نمیکنی که میشه چی ملکه ذهنره و عادت تو رفتارت میاد. برای همین که برای همین میگیم که تغییر تو رفتار باید بشه اینم تکنیک داره یه تکنیک تکراره. چرا میگم برو برای پسرت بگو، برای همسرت بگو، برای پسر گلتون، برای دوست دخترت بگو، برای مامانت بگو؟ چون نه، چون وقتی تکرار میکنه؟ هی،, هی چی میشه؟ یادم. بعد اون یه سوالی میکنه روح سوالش فکر میکنه. میتونی جواب بدی یا نه؟ نمیتونی باز مشورت میگیری. میتونی ذهرت هم چون کارم به سلاست رواب کامد میکنه. و کم کم، عادتتون میشه. برای همین شما لازم نیست. یه دریا یا اقیانوس از اطلاعات داشته باشید. که دومش بیشتر به کار من میاد. اون رو بگیرم. م? مثلا من یه، یکی از دانش پذیران به من اینجا ببینی او اون موزاکر محفر را که به من بودم اون بایده برای من شد همین چیزی زندگی. من رفتم که دیگه تو این بیزینسه فقط به این باید نباید و من خیلی مطال بهشون گفتم. دستتو میبوسم. اگه همین یه تیکیه کم به دردت بخور، من خوشحالم. این من از اون پول اون پوله نه، اون معنویه خیلی به من دادیم. خیلی به من دادیم. پوله که ارزش مادیش چنده هم قضاید. یه, یه فصل پوله لباسای من ها ولی اون خروجی معنوی که برای تو داشته و برای من چه برناکات زیادی داره. شما چی برای خوبه؟ اون رو. این دو تا کتابی رو که به تو گفتم. دخولی. توی ارتباطات هم کتابهای زیادی وجود داره بسته به این داره که شما دنبال چی هستید اون ارزیابی را انجام بدید بعد به من یه فید برفی بدهید یه کتاب ها خیلی خوب دو تا کتاب تو ارتباطات بهتون خیلی قطتون میگم. آقای آلییاسی و توی تو های ارتباطی آیاسی توی ارتماط به نفس ارتباطات ترجمه‌های خیلی خوبی داره کتابش رو به درد میکن ولی بعض این کتاباش خیلی <تصفح> توی ها خیلی قطتونه تویویه هم یه بحث های ارتباطی داره اه، اه، بهتون میگم چه کتابی اون برختون رو, رو انجام ده. به من بگید اینا در چه وضعیتی. خب بفرمایید فرم داد این عملی کردن دانسته خیلی که جا انتشارات داده چی؟ انتشاراتشون نمی براتون تو نگاه میکنم دل... دل... براتون ایمیل یه میم... دل... دل... ایمیل یه محبتی کن یه ایمیل که یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه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 اسان یه نفر تو برای همه بگیری و کنه که بله، شما جایی بریم. نرو بعد. همه کتابای مستعار، همه کتابای اکثریتی. چی جدتره؟ آره کیت کردن؟ چارچوب کردن؟ اما در این مورد، برای این دو جهت، دارستم. اما یادم نیست. بفرمایید. دو سارگوش می‌کنیم. دو این چهار عدد آسا است؟ آیا بعضی از من این چیزها شبه شما والا بعدن یهو کتابی که من گفتم این نویسنده نبود اونم براتون می‌فرستم البته اینم خوبه ها فکر نکنم حالا خیلی تقصیر این کتاباش خیلی خوبه محشره من خودم بزن کتاب کنم چون من جایه که دوست دارم بحت... اون سخنه به سخنه اصلا بهت تو می‌کنم و سخن نگیرید اون که گفته ریفرنسات بدهش می‌خوامین اماندی کردن ریفرنس یه کچام اینکه توی منظرات‌های بیشتر بدن می‌کنم اگه بعد میگم به حوزه شما مسئله اگه شما تو حوزه بازاریابی بازار یا فروشی حتما یک کتاب کاتلر رو داشته باشید حتما یک کتاب مرجع اصول و موانی بازاریابی داشته باشید اگه مرحبه انسانی چی مثلا من بهشون میگم حتما یک کتاب مدیران مرحبه انسان مثلا دکتر سرابی یا دکتر مقیمی رو مثلا بخرید اصول نه، ببخشید. آقای، چیز اینجا واصلن بی میشه. ایرادشو انجام بعد من در خدمتتون. من که تو وقتی شما اینجا تکلیف من هستم. اینو من بخونید این نه. نه، چه سوتو همه خوندین؟ گوشو سلامتشو بخونید بفرمایید. نظر اول اسم رو. گروه؟, گروه با گوشا گروه؟ ای. قانون ازنوزی، ایتیوانی و بنده. ای چی؟ یعنی شما رتبه ایو دارید نا، نا. ما شما <تصفيق> <تصفيق> نه نه رو نه چرا بهتون گفتم یاد بگیرید جامعه خودتون هویت بدید و اگر خودتون رو نمبر وان بدونید یه ده درصد مسیر رو فیش اگر ساعت خودتون ده درصد مسیر رو رفتین همیشه برای خودتون حوییت قاید میشه. کسی که کار آب دارد به بحچه ها میگم. میگم با لباس پوشیدن با نوع برخورد به ایکار حوییت بده. همکسی نمیتونه کارت باید کنه. به،, به،, به گروه های خودتون تو جامعه حتی تا دلیش چوچه باید هم حوییت بده. بفهمم طرفتون گروه ا هلوزموزی 아이 شیبانی بوده بله خواهش می‌کنم خب به نظر گروه شما آقای یگانه چه شخصیتی دارد؟ بله با توجه به اون توضیحاتی که اون بالا هستش ایشون این شخصیتی درونگرا است و یاد. به نظر چونی میاد بله بله و آیا شخصیت ایشان با شغلشان متناسب است که از دید ما یک مدیر بازرگانی موفق باید چه شخصیت برونگرا داشته باشه بله. تا بتونه فعال باشه، اثرات مؤثری داشته باشه بله. و بتونه اون کار مدیریتی خودشو انجام بده. که نشه برابری متناسب نمیکوشه. بله. بله. سوال دوم به نظر گروه شما آقای یگانه در مذاکره با وزیر خود از کدام استراتژی مذاکره استفاده می‌کرده است؟ بله. حالا استنباط ما این بود که ایشون نوع ارتباطشون اگر باشه، ارتباطشون رسمیه. <تصفيق> و داره در چارچوب عمل میکنه <تصفيق> <تصفيق> بله، منه تو هر ارتباطی ما در مذاکره میکنی بگه این کدوم یکی از اون استراتیجیه که خیلی گفتم و دنبال کرده؟ برد برد، برد و بخت، بخت بخت، بخت برد کدومش؟ برد برد بورد باخت بورد نه شما نه بس دلیل که ورشت که خودشه نه اون خودش فکر میکنه داره میبره ولی با کارکانونش داره میوازه تو تمام پس میشه بورد باخت پس به هر حال شما اعتقاد داشتید که استراتژیش بورد بر نه بورد بر نیست ماشینای من احساس میکنم که اصلا باخت باختم شاید هم میکنه باق باشه دیگه چون کارای لازم رو نداشته پس به هرها تو مجموعه غیر اصولیه مذاکره غیر اصولی کرده درست آقای کاشانی؟ شما هم همین در رو داری؟ بله؟ بعد شده که با اطلاعات او در واحد بازرگانی شرکت مازد چه مانع یا موانع ارتباطی وجود دارد نامویی؟ ما توی ای که وجود داریم خب مثلا معانه فندی نیست این چه بیان نشده؟ بله. مانع سازمانی هم نمیتونه باشه به خاطر اینکه مدیر عامل ایشون تذکر داده پس سازمان مانع ایجاد نمیکنه که شما نباید بله. اینجوری. این بله. مانع مانع انسانیه. بله بله من البته فقط گوش میکنم بله که میگم. مانع باعث نارضایتی نیروی انسانی مجموعه شده است. بله سمیتر. به نظر گروه شما آقای یگانه در برای ارتباط مؤثر و مذاکری موفق بازی مجموعی خود نیاز به چه توانمندی داره؟ دارد؟ آمد. من میخواستم که عرب برای آنچه که توی این سه جلسه، عرب دو جلسه جلسه پیش آمده کرده بودم، بعد اصلاحش کردم بر تو فدرستم با توجه به آنچه که آنگوختیم، و آنچه که خودمون قبلاً تجربه و دانش داشتیم. یعنی میخوام که چیزهایی را به ذهنتون اگر رسیده که ما در موردش حرف را و مطرح بفهم چون نویشتم بحث به دانش گذشتت و تجاربتون رو مطرح بفهم بله. بله؟ نظرم این بود که آقای یگانه از دام های ارتباطات مؤثر اصلا کلا به دور است. هفته گام برای تو گفته بودم این شام از که گام های ارتباط موثر شامل گوش دادن فعال همدلی و همدردی سریع و صادق بودن حفظ آرامش و احترام متقابل خویشتن شناسی و خداگاهی به شمیر مناسب مخالفت کردن و عدم تحریف شناسایی را بیاموزد و نوع روابط خود با کارکنان را بهبود بخشد بله؟ و در جد بهبود و پرورش نیروی انسانی در رابطه با بخش بازرگانی بکوشد ایشان از روش های بهبود اثر سربخشی ارتباطات مانند ایجاد خودت ویژنش از های موردی و غیره هم استفاده کنند احسن چی دیگه غیر از اینها امکار داشت به زینتون برسته که ما اینجا بهش اشاره نکردیم اگر چیزی الان به زینتون میسته بفرمایید اصطور من فیر میکنم که اصلا بجاز اینکه ایشون درم هستن در روابط امومی ضعیفی هم دارن ولی حَمّا الان رو تاتومال سرونده اینم چون هر ارتباطش رو باعث اشاره, اشاره <تصفيق> کرده بود. روابط عمیقی دل... ضعیفی داره یعنی نمی‌چونه با کار کردن شامل پیدا دل... کردن. درسته. دل... ولی متشکرم. خیلی خیلی خیلی خیلی ممنون برای این. لطفاً ب گروه بعدی بفرمایید. حتماً الان بله خواهش میکنم. بله حتما نه خواهش می میکنم؟ نه خواهی می فیلم بنداری می کنیم برایتون بهدیم باید باید باید خوش ممنون، متکر خیلی هست من شرمنده می کنیم من خیجا بگذاره می شم خوشید به این کاره شما بسیار پرنسیب دارید آه می دوید بخواهد من هفته آینده کلا مسئولیت جنوبم ولی سعی می‌کنم برای جونم خودم قهرش شده درایش میکنم باشی سعادت با من دست سعی می‌کنم برسونم حالا هرچی هم بود تلفنين اگه شده نه اصلا خالصه. خیلی هم خوشحال میشم اینو که کلیک می‌خوای بدیم بذار شما سفره چجوری خودت چینو برسونم چجوری خودت با کشتی شده بودم کلا شهر آبادان اونجا یه قهوه‌خونه دارم به خاک اونجا ما به دوستید بایدش میپنم؟ <تصفيق> <تصفيق> زنده باشیم. بایدش بایدش باشیم. برشت. بپرم. اگر از گسته بینشینید، بینشینید آمان بیادم. تخواهش کنم. آبا از شاید نست. عزیزم شو اون کجرده ستیم اینا برای هر جرگش کال یا زنگ بزن یا ببورس آخری بگرم. ما دخلیست. بفرمین؟ با عرض حدار خدمت دوستان، در پاسخ سوالات پرسش‌های های مطرح شده شخصیت آقای یگانه داره شخصیت درونگره بوده؟ بله و پاسخ های ناشی از عملکرد کرده ایشان باینگر ناملت بودن شخصیت آقای یگانه و شغل ایشان هست البته شخصیت یک انسان با تحصیل کردن، حوض کردن گروه دوستان میتوان به این هدف ناید شد یعنی که آقای ابراهیم من درست پنام رو از گروهتون شما معتقد هستید درست که ایشون یک گرایش به گرایی داره ولی میتونه با در واقع اکتساب به صورت اکتسابی خودش رو چگاه کنه توسعه بده و به اون شخصیت یا گرانگرا تا حدی نزدیک شد اون طف باعث کار کنه بتونه که در همون شغل خودش دیفای نقش بکنه. متشکرم. بله. آقای یگانه از استراتژی کمتر نشان دادن خود استفاده کرده است. بسیار مختصر سخن بوده و برای این کار مبانی زیادی برای ارتباط کردن، برای ارتباط پیدا کردن افراد با خود گذاشته بوده است. و بله. از استراتژی برد باخت استفاده کرده درسته. و یک مذاکره اصولی بوده است. در ارتباط موثر نیاز دارند که مهارت‌های فردی خود را در رابطه با مهارت‌های شنوایی، مهارت‌های کلامی و بازخورد افزایش دهند. ایشا باید در رفتار خود تغییر ایجاد کنند و باعث نارضایتی افراد زیر مجموعه خود نباشند. های موردی جلسه با کارمندان برای این مهم برای این موضوع مهم است. بلد. چه توامندیوی رو گفتیم بهش اضافه غیر از این رو که الان چیز دیگه به ذهرتون نمیرستی؟ غیر از آنچه که تو کلاس مطرح کرده بودیم؟ توامندیوی برای من کمک کنم برایم برایم از که آقای نایمی دیتر مدیر آنونش معایجه کنه و استعفا بده نگه استعفا بده خیلی خودش رو قرد مرزی هاشم راه میکنه خودش راهت کردیش، یکرشم راهت کردیش خب نه اینجا از, از زیر بار یه پیشنها دیگه این هم یه ایده است ولی ببینید، من وقت سوال کردم دو... ها... هم... هم... چه محبه هست؟ کردن سوال نه، اینم یه راهه ولی مسئله یه چیزی وجود داره مسئله شیه مدیران به بایشون همراه هست یه اقاچه تو بیدتون محسسه از شراکه چرا با خودت این خواستن و این تغییر رفتار باید در من انگیزهش وجود داشته باشه ولی به نظر میاد که نه چرا در واقع بخواد خودش رو استفاده بده باید یه بازنگری روی رفتارش رو عمل کردش داشته باشه و نقاط زفرش رو سرگیره به نقاط قوت تبدیل رو آموزش بله من خیلی استفاده دست شدم. من خیلی متشکرم و مرسی چون که من فقط میخواستم که این کیس رو برای این دادم که ببینم شماها اون دریافتاهایی رو که من میخواستم که الحمدلله هر دو گروه اون دریافتا رو داشتن هر دو تاتون درست اشاره فرمودید استراتژیایی که به کار برده بود واقعا برد و باخت بود شخصیتش تا حدی همه مختصا صحبت کرده همین که خیلی تعامل نکرد گرایش تون تف به گرایی داشت و بهترین کاری که میتونست بکنه که ارتباطاتش رو به فرقا ها ولات نفاشقاایشده از این مهارت ها میتونش روی مهارت های دیگه یعنی که ببینه که اولا مهارت اداره جلسه مذاکره موفق، متقاع سازی. م? زیر مجموعه خودش رو محارت های تاثیرگذاری که همه اینها زیر مجموعه چیه؟ محارت های ارتباطیه ولی مهمترینش همه هفتگاه هم بود که دوستان گروه یه تشاری کرده بودن و همچنین گروه دو هم به این محارت ها. که این محارت های کلامیش و شنودیش بزارم شما وقتی که با افراد تعامل میکنید باید بشین بشنبید درسته؟ این بازخور بگیرید و به حرفا ما خوب گوش کنیم دردشون رو بدونین نه از این کار میخوان در یا نه واقعا چیه یا تو بس باهاشون تعامل کنین یا چنسی متقاعدشون بکنین من فقط رو دادم که یه مرور بشه چون اصولا وقتی یه کیسو رو خونیم و حلش میکنیم بیشتر ملک ذهنمون میشه مثل فیلم میونه دیگه بیشتر دست شما درنوانه مرسی شما من انتظارم که برآورده شه بشن خیلی سر رو بارش با راحتی با اینا بردا اوکی کردیم پسرم. داره کپی میشه استاد. آها؟ کپیش تموم میشه؟ کپیش تموم میشه. حالا اوکی میشه. بار دیگه فایل اتونو ریختم روی ها. یه بار دیگه داره برکه آه. اوکی. آها، حارختم. ریختم فرمت کردم دوباره الان فایل اتونو دوباره می‌ریزم مرسی. بعد دیگه از روی چیزام بعد برش دارم از روی هارد من دیگه کوششام دارم شام کوپی شما و باز نه از اونها هر دارن پاکش میکنیم دیگه چون پایین کرد تو نه چون دارم آره نه نه نه نه فکر کنم این فرقه نه متوجه نیستم نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه من خیلی تحکیم دارم به سیستم خودم چون میدونید که ما آقا فاضل هم سیستم نوع بله از هفتاد تو ایران شروع شروع بله؟ کار تخصصیش هنوز نرسته به این که موقع توی نرمبسار بیارید سیستم اون تحت اومان و دیمجانش بیاده بکنه من باید افرشو چیکار کنم؟ فرهنگ سازی افرشو ما فرهنگ سازی کنم افرش فرهنگ و البته اگر که بارده سیستم سازمان مهمه. سازمان هستن که مشاوره میدن برای شما همین مدیریت دانش رو پیاده سازی میکنن اونجا کار فرهی سازی رو میزن و جلسات رو قرار رو میدن و بعد اون موقع شما میتونید نه مغزار بستهگی داره چقدر میخوان هزینه کنید اگه خواستین هزینه کنید میتونید کمک از مشاورایی بگیرید بگیریم توی حوزه هستن و خودتون اول از همه بهتره که یه فرایندی رو بیارید اول از همه توی کارهای ف تخصصیتون یه فرایندی تو آموزشتون که اینا بیان خروجی رو ثبت بکنن بحنه. و بدن گزارش بدن یعنی یه جایی متولی این کار میشه بگه بعد اونا بیان اینا رو به صورت الکترونیکی بذارن توی سایتتون سایتتون هم نیاز داره که آی تی ماناتون یه دونه اضافه بکن اضافه که البته اون موقع بعد یه لیدر داشته باشه یه تایید کننده داشته مش مثلا گزارشم هم یه کسی نگاه کنه چطوری توش نباشه چیز اشتباهی نباشه چون بعد میخوان دیگه اونجا یعنی در واقع یه جوری رسیدی میشه. این کار خیلی ابتدایی و اولی است که شما خودتون میتونید بدید. فرهنگ سازیش هم اینه که هم در مورد صحبت کنیم، هم تو سایتمون شعارایی رو بذاریم تو سایت‌های درون سازمانیمون، وبسایت‌های داخلیمون و اینکه و توی فرآیند آموزش و کار تخصصیمون گزارش بخوام، ثبت بخوام. یعنی اگه شما اومدین مثلا یه قسمتی از این کار حرفه‌ای توی تهران رو بازنگری کردی من مثال دارم مثلا لولا افوازه با چه مشکلاتی در معضلات یا تز... تعارضاتی که داشتی چیا بوده ها مدیر پروژه تعارضاتش رو ثبت بکنه شیوه تخصصی کار کردنش رو ثبت بکنه دیگه اینا میشه در واقع با در واقع مدیریت رو ولی کاری که یه ذره گام به گام واسه صورت بگیره از اینجا به بعدش میتونید یکی اینکه غیر از اینکه جلسه می‌ذارید و شعار رو تو سایت و درواجش حرف میزنید تو جلسات تکرار میکنید این بحث بحث مهمیه اینکه از آدما بخواین آموزش که میبینن یه صفه با چهار به شما گزارش بدن از اون کلاس چی یاد گرفت ولی اگه فرمت بدید بهتره چون آدم تو فرمت مثل شما ها من تو خواهش کرده بودم که سه تا سوال بپرسم میچورم بگم تحلیل خود از این کیفس بگید سوال گفتم بخاطر وقت ندشین فرصت کنم می‌خواستم که شما تو چارچوب این, چارچو این پاسخ‌ها رو بدید و می‌خواستم که هم مذاکره رو به جواب بدید هم تو ارتباطات جوابی هم بدید که تو دانش قبلیتون در حوزه ارتباطات به چه نکته‌های دیگه‌ای فکر یا آمخته بودید مرحله اولشه من نمیتونم فعلا متاقاتش رو کنم به سیستم تو آموزش میتونید چون اونجا بودید میتونید برای آموزش کن یکی از کارهای ماستن اینه که آموزش ها رو این کارو بکنه هر یه هرکسی سینار میگه یه یه صفحه بنویسه هرکسی خارج از کشوری بازدیدی میگه کاری یه بازشید سه صفحه ای بده یه پاورپوینت بده این مقدمات عادل ولی خیلی بعدا باطل حرف آل کار تخصصی انجام میدیم نه حالا مثلا شیوه مشاوره دادن بعد توی کلینیک مشاوره اگه سخت بشه میتونه برای آردگات چی باشه کمک کننده باشه البته اینا تخصصیش میشه دیگه حالا آره هر پا... شما تو آیکی میبینید شما تو تخصص خود تو هر کسی تو دیتی کالیدیش اینو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 دو هفته می‌شه باید دو هفته می‌شه باید که رفتم کنه اولی فرصت یه سری فست شما پیدا کنم گفتم اون چیزه براتون تو رو نگیت براتون اون دیماه اولیش رو گفتم شکلش چی میخواد باشه از چه سایتان می‌تونیش کار کنی؟ فسته باشی کنه، فرسته باشی کنه فرسته باشی کنه، فرسته باشی کنه، خداشکر من شن